کتاب کوچک بیتکوین آینده ی بی در انتظار ماست از زمان خواستن ما انسان ها بر روی پاهایمان فقط پنج یا شش بار این چنین دری به روی ما گشوده شده است اکنون بهترین زمانه برای زنده بودن است زمانی ای که هرچه فکر می میدانی اشتباه است نمایشنامه نامه آرکادیا تام استوپارد مقدمه مترجمان پول در اصل یک توافق اجتماعیه در طول تاریخ جوامع بشری روش مختلفی رو برای رسیدن به این توافق امتحان کردند. از صدف دریایی، تخت سنگ مرمرین، نمک، طلا، تا سیستم پیچیده بانک مرکزی که امروز توی جهان رایجه بعضی از این پولا پشتوانه قویتری نسبت به بقیه داشتن و ارزش اونها در طول زمان بهتر حفظ شده مطالعه تاریخ سنگ های مرمرین رای که در جزیره یپ به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتن برای فهم موضوع پول و پشتوانه اون بسیار آموزند است جزیره یپ امروز بخشی از جزایر میکرونزی در غرب اقیانوس آرامه. سنگ های رای که برای مردم جزیره حکم پول داشتن در واقع سنگ های گردی بودند که مرکزشون سوراخ بود و وزن بعضی از اونها به چهار تن هم میرسید. این سنگ ها به طور طبیعی توی جزیره یپ پیدا نمی شدند چون سنگ مرمر توی اونجا وجود نداشت. تمام سنگ های رای از پالاو یا گوام که در مجاورت یپ بودند به اونجا آورده می شدند. زیبایی و کمیابی این سنگ باعث می شد خواهان زیادی داشته باشند، ولی به دست آوردن اونها کار بسیار سختی بود چون باید از معادن سنگ استخراج و تا جزیره یپ با قایق حمل می شدن. برای جابجا جا کردن بعضی از اونها تا صد نفر باید با هم همکاری می کردن. وقتی این سنگ به جزیره یپ می رسیدن اونا رو توی محلی معروف جلوی دید همه قرار می و صاحب هر سنگ از اون به عنوان ابزاری برای پرداخت استفاده می کرد بدون اینکه لازم باشه اونو جابجا جا کنه برای انتقال مالکیت کافی بود مالک جدید به ساکن جزیره معرفی بشه اونو مالکیت سنگ ها رو به رسمیت میشناختن و صاحب جدید هم میتونست به هر صورتی که مایله از اون به عنوان ابزاری برای پرداخت استفاده کنه پس عملا راهی برای دزدیددن سنگکان نبود چون مالک هر کدوم از اونا برای همه شناخته شده بود. این سیستم مالی صدها سال برای ساکنان جزیره گیپ کار آمد بود. این سنگ ها به طور طبیعی در این جزیره وجود نداشتند و هزینه بالای تهیه این سنگ ها باعث می شد تعداد های موجود توی جزیره نسبت به سنگ های جدیدی که در طول یک سال با قایق به جزیره آورده می شدن خیلی بیشتر باشه. یعنی با وجودی که این سنگا خواهان زیادی داشتن تولید بیشتر و اشباع کردن جز... جزیره از اونها عملا ناممکن بود این شرایط تا سال 1871 میلادی ادامه داشت تا وقتی که یک کشتی که کاپیتان ایرلندی آمریکاییش اسمش دیوید اوکیف بود در نزدیکی سواحل جزیره یپ غرق شد و مردم محلی دیوید رو نجات دادند اوکیف قصد داشت اونها رو از مردم محلی بخره و با فروش اونها به تولید کنندگان روغن نارگیل سود زیادی ببره اما مشکل اصلی این بود که اونها پول اوکیف رو قبول نداشتند و حاضر نبودن برای اون کار بکنن اون باید راهی پیدا میکرد پس به هنگ کنگ رفت و یک کشتی بزرگ و مواد منفجره تهیه کرد و راهی پالاف شد اونجا به کمک ابزار مدرن حفاری تونست چند تا تخت سنگ مرمری تهیه کنه بعد به سمت جزیره یعب حرکت کرد تا سنگ ها رو در قبال نارگیل ها پیشنهاد بده برخلاف انتظار اونا تمایلی به پذیرش سنگ های اوکیف نداشتن تا جایی که رئیس قبیله پذیرش اونها رو ممنوع کرد چون معتقد بود اون سنگ ها به آسانی به دست اومدن از نظر اون سنگ های قابل پذیرش بودن که با سخت کوشی جزیره تهیه شده باشن اما کم کم بین افراد قبیله دو دستگی پدید اومد و بعضی از اونها سنگ های اوکیف رو در قبال نارگیلها ها قبول کردند و همین باعث شد این سنگ ها کارکرد پولیشون رو از دست بدن. جزئیات از بین رفتن کارکرد هر پولی ممکنه هر جای دنیا با هم متفاوت باشه ولی خلق آسان و بی‌پشتوانه اون دلیل مشترک بین همه اونهاست. در زمان ترجمه این کتاب اقتصاد ایران متأثر از تحریم‌های های ناکارآمدی اقتصادی و اثرات مخرب ویروس کووید 19 در شرایط رکود بیسابقهی قرار داره. خلق بیرویه پول توسط بانک مرکزی باعث به وجود اومدن تورم ماهانه حدود 30 درصدی شده و کارشناسان اقتصادی همواره خطر ابرتورم تورم رو محتمل و جدی میدونن و به مسئولین گوشتد می‌کنند. از شرایط وخیم و مزمن ارزش پول ملی ایران همین بس که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارزش پول ملی در طول 49 سال گذشته 3500 برابر کاهش داشته. منبع خبرگزاری خانه ملت آیا میتونیم یک پول جدید و با پشتوانه به وجود بیاریم که هم از دستکاری دولت ها در امان باشه و هم بتونه جوابگوی نیازهای انسان امروزی در عصر دیجیتال باشه؟ از دهی 1980 میلادی این مسئله دقدقه جدی دانشمندای علوم کامپیوتر و ریاضیدانها بوده. اونا سعی داشتند با استفاده از علم رمزنگاری کمیابی دیجیتال به وجود بیارن. اما همه که تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید تا اینکه در اواخر سال 2008 میلادی فرد ناشناسی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو یک مقاله علمی منتشر و در اون ایده خلق یک پول کمیاب در قلمرو دیجیتال رو مطرح کرد و نام اون رو بیت کوین گذاشت. این کتاب توسط گروهی از نویسندگان در تابستان سال 2019 میلادی به زبان انگلیسی و به اسم The Little Bitcoin Book به نگارش در اومده و توسط گروهی از علاق مندان به اقتصاد و نرم افزار به فارسی ترجمه شده. خوندن و درک مطالب این کتاب پیش نیازی نداره چون تلاش میکنه مفاهیم بیت کوین رو بدون درگیر شدن با مسائل فنی و تخصصی و با زبانی ساده توضیح بده. با توجه به اثرات مخرب ویروس کووید 19 بر اقتصاد جهان و نوسانات قیمت بیت کوین همچنین قوانین و مقرراتی که کشورهای مختلف در مورد بیت کوین میکنند در حال حاضر ممکنه برخی از آمار و ارقامی که توی این کتاب اومده تغییر کرده باشه ولی مطالب مطرح شده توی این کتاب بعد از گذشت دو سال از نگارش اون همچنان برای تبیین نقش بیتکوین در دنیای امروز موضوعیت داره و برای مخاطبان گرامی مفید خواهد بود تهران تابستان 1400 فصل اول پول رایج امروز چه مشکلاتی داره سال 1981 یک زوج فیلیپینی به دنیا اومدن اولین فرزندشون رو در مانیل و بعد از برچیده شدن حکومت نظامی ده ساله جشن می‌گرفتن فردیناند مارکوس دیکتاتور فقط چند سال دیگه روی کار میموند اما سعادت و خوشبختی خانواده تنها در دغدغه پدر و مادر لوئیس بود اونها یک حساب پسنداز باز کردن تا با پسندازشون برای شرایط ناپایدار سالهای بعد آماده باشد نرخ تبدیل پزوس فیلیپین به دلار آمریکا در اون زمان هفت به یک بود. سال 1993. در لاگوس یک ژنرال نیجریایی به نام سانی آباچا قدرت رو به دست میگیره و نرخ تبدیل نایریای نیجریه به دلار آمریکا رو 22 به یک تعیین میکنه. این کار اون تلاشیه تا بتونه از سقوط بیشتر ارزش پول ملی نیجریه جلوگیری و اقتصاد کشورش رو باثبات کنه. این نرخ تبدیل باعث به وجود اومدن بازار سیاه پر رو نقی شده بود که در اون نایرا به های خیلی پایین‌تری معامله میشد. آباچا در سال 1998 از دنیا رفت. نرخ تبدیل دلار به نایریای نیجریه در این سال 1 به هشتاد و هشت بود. یعنی ارزش پول این کشور چهار برابر نسبت به نرخ رسمی تعیین شده در سال 93 پایین تر اومده بود. میلیون ها نفر دچار رنج و فقر شدند چون با حقوقهای ثابتی که از دولت میگرفتن نمیتونستند از عهده خرید اجناسی که هر روز گرانتر میشدن بر بیان. سال 2015. در طول مرز پروس ونزوئلا، شهروندان از ابرتورم 400 هزار درصدی به کشورهای همسایه یعنی برزیل و کولومبیا فرار میکنن. بیشتر از 3 میلیون نفر تا حالا از فقر و گرسنگی از ونزوئلا فرار کردند لورنا یه ناموایی 48 سال است که بلاخره تصمیمشو برای مهاجرت به کولومبیا گرفته. توی مرز اما معموران مرزی وسایل اونو تفتیش میکنن تا اگه چیز ارزشمندی داره از اون بگیرن. ولی چیزی پیدا نمی‌کنند چون خبر نداشتند که لورنا قبل از اینکه به سمت مرز حرکت کنه ساعت‌ها وقت صرف کرده بود و اسکناسهای دلار آمریکا رو با استفاده از وسایل آرایشی مخصوصی لای موهاش پیچیده بود و تونسته بود اونها رو میان موهای بافته شدهش پنهان کنه. اون تونست با کمک این حقه با خیال راحت از مرز عبور کنه. در مانیل فیلیپین شانس از پدر و مادر لوئیس روی بر نرخ تبدیل پزوس به دلار آمریکا پنجاه به یک شده و سرمایهایی که در طول این سالها جمع کرده بودند حدود 80 درصد از ارزشش را از دست داده بود با وجودی که زمان بازنشستگی اونها فرا رسیده بود چاره ای نداشتند جز اینکه کار کنند و برای آینده غیر قابل پیشبینی پسنداز کنند در لاگوس نایریای نیجریه بعد از از دست دادن تقریبا 50 درصد از ارزشش در عرض فقط چند سال شرایط تقریبا پایداری رو تجربه میکنه اما قیمت اجناس توی بازار دوباره سر به فلک کشیده هیچ کس حتی مقامای عالی روسیه دولتی هم به توانایی دولت برای جلوگیری از وقوع یه بحران اقتصادی اعتماد ندارند. سال 2019 در شانگهای یک کارشناس جوان به اسم انی به دوستش در پیامرسان ویچت که هر روز توسط میلیاردها چینی مورد استفاده قرار میگیره پیامی داد. دوستش بهش گفت که به خاطر مصرف مواد به دررسه افتاده و ناگهان ارتباط اینترنتی اونا قطع شد. فردای اون روز دو مامور لباس شخصی پلیس به دفتر کار انی رفتن و ازش خواستن با اونا بره. هفته ها خبری از اون نبود. وقتی برگشت و به فضای مجازی دسترسی پیدا کرد متوجه شد دسترسی به بعضی از خدمات پرداخت ویچت رو از دست داده اون دیگه نمیتونه بلیط هواپیما یا قطار بخره اعتبار بانکی اونم خیلی کاهش پیدا کرده بود زندگیش فقط با یه جمله که توی پیامرسان رد و بدل شده بود تباه شد در آکلند شهری در ایالات متحده الکس به یه مغازه حیوانات خانگی میره تا برای سگش غذا بخره چیزی که میخواد و پیدا میکنه و علاوه بر اون یه غذای جدید میبینه که بوی دهان سگها رو بهتر میکنه. اون از اون مغازه خرید و پول خریدش رو با کارت اعتباری ویزا پرداخت کرد. چند دقیقه بعد وقتی به توییتر میره میبینه که توییتر یه تبلیغ برای همون غذایی که چند دقیقه پیش برای سگش خریده بود به اون نشون میده. بعدا معلوم میشه که شرکت صادر کننده کارت اعتباریش اطلاعات خریدهای مشتریان رو با شرکتهای واسطه به اشتراک میگذاره. الکس متوجه میشه که جزئیات زندگی خصوصی اون در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار میگیره و این موضوع برای اون و نسلی که از گوشی هوشمند استفاده میکنن بسیار ناامید کننده است. حتی توی ایالات متحده هم حریم خصوصی مالی در حال از بین رفتنه. این مسائل اشکالات پول رایج امروز رو به ما نشون میدن پدر مادر لوئیس و میلیونها خانواده طبقه متوسط فیلیپینی و نیجریایی فقط در طی یک نسل شاهد از بین رفتن ارزش پولهاشون بودن لورنای ونزوئلایی برای انتقال پسانداز ناچیزش به کولومبیا باید راهی پیدا میکرد تا معموران مرزی نتونن دارایش رو مصادره کنن برای همین مجبور بود از خلاقیتش استفاده کنه و پولش رو توی موهاش جاسازی کنه. انیه چینی که دسترسیش به ابزار پرداخت آنلاین محدود شده، گویی به زندان مالی افتاده. خریدهای الکس آمریکایی هم زیر نظره و هر بار که از کارت اعتباریش برای پرداخت استفاده میکنه، اطلاعات اون خرید به شرکتهای تبلیغاتی فروخته میشه. این موارد مختص به چند کشور به خصوص نیست، از سال 2000 میلادی تقریبا همه ارزهای دنیا نسبت به دلار آمریکا ارزش خودشونو از دست دادن. خیلی از اونا مثل رند آفریقای شمالی، پزوی آرژانتین و لیر ترکیه حدود 50 درصد و هیرونیای اوکراین و پزوی دومنیکن تا 70 درصد از ارزششون رو نسبت به دلار آمریکا از دست دادن. حتی قدرت خرید دلار و یورو هم توی این مدت 33 درصد کاهش پیدا کرده. توی سرتاسر سر دنیا 250 میلیون مهاجر و پناهجو برای فرستادن پول به خانواده‌هاشون یا انتقال درآیاشون به یک کشور جدید مشکل دارن. حدود دو میلیارد نفر تو دنیا به خدمات بانکی دسترسی ندارن. پول توی دنیای امروز همچنان محصور به مرزهای جغرافیایی کشور است. در همین حال ساکنان کلان شهرهایی مثل شانگهای و سانفرانسیسکو، آشکارا حس می زیر نظر قرار دارند. از یک طرف برادر بزرگ نماد و چهره همون حکومتی که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظارت و کنترل داره و از طرف دیگه شرکت‌های بزرگ ما رو زیر نظر دارن و تک تک های ما رو ردگیری میکنن و اطلاعات خصوصی ما رو بدون اجازه به شرکت‌های تبلیغاتی و واسطه ها میفروشن. حریم خصوصی این روزها یک کالای لوکسه که هر روز گرونتر میشه پول چیست؟ پول در اصلی توافق اجتماعیه مردم باید اعتماد داشته باشند، هر زمان اراده کنند میتونن اسکناس های داخل کیفشون یا موجودی حساب بانکی یا کارت های هدیهشون رو به کالا و خدمات دلخواه تبدیل کنند. فروشنده هم باید از ارزشمند بودن پولی که قرار از خریدار بگیره اطمینان داشته باشه. در طول تاریخ جوامع بشری برای رسیدن به این توافق اجتماعی راه های زیادی را امتحان کردن. از های دریایی، نمک، طلا تا سیستم پیچیده بانک مرکزی امروز. بعضی از پولا پشتوانه قوی‌تری نسبت به بقیه دارن و در طول زمان ارزششون رو بهتر حفظ می‌کنن. به طور غریزی همه میدونند که پول مسئله مهمیه و همه میخوان داراییشون رو در یک پول با پشتوانه بالا ذخیره کنند مردم در ازای کارشون پول میگیرند. پس پول نماینده زمان و کار اونهاست. پول ابزاریه که با اون میشه کار و تلاش یک فرد رو در هر زمان دلخواه به کالا و خدمات دلخواه تبدیل کرد. بر همین اساس دسترسی به یه پول با پشتوانه یکی از اصلی ترین جنبه های قدرت فردیه پول برای دولت ها هم اهمیت زیادی داره چون مدیریت اقتصاد و کنترل پول هر کشوری در اختیار دولته حدشن ممکنه وسپسشن و از این قدرت سو استفاده کنن مقامات دولتی اغلب از این قدرت برای رسیدن به مقاصدشون استفاده می فقط حکومت های مردم سالاری که حقوق فردی تثبیت قوا و حاکمیت قانون رو به طور کامل اجرا میکنند میتونن به طور مؤثر از تورم، مصادره اموال و فساد مالی که مستاق سوء استفاده از کنترل دولت بر اقتصاده جلوگیری کنند. در دنیای امروز کارکرد پول چگونه است؟ اسم پولهای ملی رایج در دنیا فیاته که از کلمه لاتین فیات به معنی تعیین شده گرفته شده. ارزش این پول توسط دولت‌هایی که اونها رو خلق کردن و در معاملات میپذیرند تعیین میشه. از اونجا که چاپ پول برای دولتها هزینه ای نداره، اونا میتونن هر وقت و به هر اندازه‌ای که میخوان پول خلق کنن. به گفته آلن گرینسپن، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایالات متحده ای آمریکا، این کشور میتونه همه قرضای خودش رو با چاپ پول بپردازه. این روش حتی برای اقتصاد پایداری مثل ایالات متحده چالش هایی رو ایجاد میکنه. قدیمیترین پول ملی پوند استرلینگ بریتانیای کبیره که 99 درصد از ارزش خودش رو در طول 300 سال گذشته از دست داده. دلار آمریکا هم 90 درصد از ارزش خودش رو در طول یک قرن گذشته از دست داده. یه پرس استیک که توی سال 1925 36 صدم دلار قیمت داشت در سال 1990 سه دلار بوده و الان دوازده دلاره در حالی که این ارز از پایدارترین پولهای دنیا است عمر متوسط یک پول فیات فقط 27 ساله امروزه هدف های مرکزی تثبیت تورم و پایین نگه داشتن اونه و همه کشورها در های از تاریخ توی این کار موفق بودن اگرچه بیشتر پول در بلند مدت از تورم صئون نموندن و این مسئله برای کسایی که این پول ها رو پسانداز میکنن مشکل سازه این افراد برای خرید ملک یا سهام که ارزش اونها با تورم بالا میره به اندازه کافی پول ندارن تورم بالا کار رو برای کسایی که میخوان پولشون رو برای آینده پسانداز کنن سخت میکنه چون ارزش پساندازشون در گذر زمان کاهش میابه ارزش دارایی ها نفر از انسان‌هایی که تحت رژیم‌های استبدادی زندگی می‌کنند به خاطر های مقامات دولتی که از طرف مردم انتخاب نشدند هر روز کمتر و کمتر میشه فقط قشر مرفه جامعه قادر برای حفظ ارزش داراییش دلار و طلا و ملک بخره اما در این حال شهروندان کشورهای ثروتمند و مردم سالار از پشتیبانی مهمی بهره هستند و به دلار یا یورو که پول تقریبا پایداری دسترسی دارن اقتصاد اونها عملکرد خوبی داره و اونا میتونن کاری با درآمد خوب پیدا کنن همچنین دسترسی به ابزارهای سرمایهگذاری گذاری دارن که اونها رو در مقابل تورم مسئول نگه میداره اثر دسترسی نابرابر به پولی که بانک ها خرق میکنن به قدری شناخته شده است که برای اون یه اصطلاح وجود داره اثر کانتیلان این اصطلاح برگرفته از اسم یک اقتصاددان قرن هجدهمی به نام ریچارد کانتیلانه که این اثر رو زمانی که به عنوان یک بانکدار در بریتانیا مشغول کار بود مشاهده کرد. تورم بالا عادلانه نیست چون باعث میشه ثروت افراد کمتر برخوردار جامعه به افراد مرفه جامعه منتقل بشه. ممکن اثرات تورم بالا برای فردی که توی ایالات متحده یا بریتانیا زندگی میکنه مشهود نباشه اما متاسفانه برای میلیارد ها نفر که تو کشورهای با اقتصاد ضعیف زندگی میکنن به شکل کاملا واضح و دردناکی قابل لمسه همچنین پولهای ملی به خاطر ویژگی چاپ پذیر بودنشون یکی از عوامل به وجود اومدن جنگهای طولانی در زمان ما هستند دولت ها میتونن با چاپ کردن پول برای ادامه جنگ هزینه اون رو با استفاده از تورم به نسل های بعد منتقل کنند. این یعنی جنگ های و پرخررج جنگ جهانی اول یه نمونه غمانگیزه که طرف اصلی درگیر تونستند با استفاده از تورم هزینه ادامه جنگ رو تعمین کنند. هم آلمان هم روسیه اجرای قانون پول طلا، یعنی سیستم پولی که در اون واحد محاسبه اقتصادی بعد پایی وزن ثابتی از تلاست و این مقدار مشخص به ازای هر قطعه اسکناس در بانک مرکزی ذخیره و نگهداری میشه و متوقف کردند و برای ادامه دادن به جنگ پول بدون پشتوانه چاپ کردند. برای همین این جنگ خیلی بیشتر از چیزی که همه انتظار داشتن طول کشید وقتی آلمان شکست خورد تنها راهی که برای پرداخت داشت، این بود که حتی بیشتر از قبل بدون پشتوانه پول چاپ کنه تا سال 1923 میلادی مارک آلمان تا یک تریلیون بار ارزش خودش رو نسبت به روزهای قبل از جنگ از دست داده بود و همین موضوع شرایط رو برای جنگ جهانی دوم هموار کرد مشابه این ولخرجی ها هم آشکارا تو روزگار ما دیده میشه گذشته از اینکه چه دیدگاهی درباره درگیری ایالات متحده توی کشورهای عراق و افغانستان داشته باشین مخارج این تجاوزهای نظامی بیشتر از پنج و نه تریلیون دلاره این یعنی اگه قرار بود مردم آمریکا به طور مستقیم هزینه های جنگ رو پردازن، هر خانوار چهل و شیش هزار دلار متحمل میشد یه اشکال دیگه سیستم پول دنیای امروز ما مشکلات جابجا کردن پول بین کشورهای مختلف دنیاست. کشورهایی مثل چین روسیه آرژانتین و اندونزی سخت سختگیرانهای برای تبدیل یا انتقال یا جابجایی پول برای شهروندانشون وضع کردن این ها بیشتر از طریق کنترل پولیه که هر یکی از شهروندان این کشورها میتونند به پول یک کشور دیگه تبدیل کنند مثلا یک شهروند چینی هر سال فقط اجازه داره تا سقف هزار دلار از پول ملی چین رو به دلار آمریکا تبدیل کنه. توی ایران اوضاع نقل و انتقال پول به یک کشور خارجی به مراتب وخیمتره. یک شهروند ایرانی هیچ راه قانونی برای منتقل کردن داراییش به خارج از کشور نداره و اغلب این کار از طریق شبکه ها و به قصد دور زدن تحریم‌های مالی و با کارموزدهای بالا انجام میشه توی بعضی از کشورها ممکنه حتی دسترسی مردم به پول خودشون توی بانک محدود بشه در کشور یونان و بعد از بحران مالی سال 2015 شهروندان یونان نمیتونستن بیشتر از روزی 60 یورو از حسابشون توی بانک برداشت کنن این یعنی اختیار پولشون دست خودشون نیست حتی اگه محدودیتی برای نقل و انتقال پول در کار نباشه این کار دشوار و پر هزینه است. در سال 2018 کارگران مهاجر و پناهندگان حدود 700 میلیارد دلار پول برای عزیزانشون ارسال کردند و برای این کار حدود 45 میلیارد دلار هزینه کردند. این رقم برای کسایی که از نظر مالی در تنگنا هستند خیلی بالاست. بانکهای مرکزی پاشنه آشیل اقتصاد جهان بانک های مرکزی پاشنه آشیل اقتصاد کشورهای مطبوع خودشون هستند. فدرال رزرو آمریکا به نوعی نقش بانک مرکزی بانک های کشورهای دنیا رو بازی میکنه. این به نفع شهروندان آمریکاییه. دلار آمریکا در هر کجای جهان پذیرفته میشه و باز کردن حساب بانکی و گرفتن اعتبار و خرید کالا و خدمات برای اونها آسونه. بیشتر شهروندان آمریکایی از تورم مصون هستند. اقتصاد پویای ایالات متحده پشتوانه و موتور محرک سیستم اقتصاد جهانی دنیای امروزه پول دلار نام سیستم مالی که در اون دلار آمریکا ارز مرجع دنیاست و ارزش پول دیگر کشورهای دنیا با اون سنجیده میشه قلب این سیستم و باعث تسلط دلار بر سیستم مالی جهانی شده این تسلط از یک رویداد کمتر شناخته شده در یک هتل در ایالت نیو همشایر در سال 1944 به نام توافق برتون وودز شروع شد. قدرت‌های جهانی توی روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در برتون وودز دور هم جمع شدند تا نظام هماهنگ مالی جهانی رو تأسیس کنند. در طول سه هفته، بیشتر از 700 نماینده از 44 کشور مختلف درباره ساختار آینده نظام مالی جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. بعضی از نماینده ها پیشنهاد دادند که یه ارز زخیره جهانی به نام بانکور خلق شه. ولی در نهایت نماینده ها توافق کردند که هر یک از ارزهای کشورهای مختلف به ازای یک نرخ تبدیل برای هر کشور به دلار آمریکا تعیین شه. در نتیجه امروزه تجارت جهانی عمدتا با دلار آمریکا تصفیه می میشه و هر کشوری سعی میکنه زخیره ای از دلار آمریکا داشته باشه. اثر مرکزیت دلار در سیستم مالی دنیا وقتی مشخص میشه که ببینیم پول چطور بین کشورهای مختلف جابجا میشه برای مثال فرض کنیم می‌خواید از کره جنوبی به فیلیپین پول ارسال کنیم. معمولاً وون کره جنوبی به طور مستقیم به پزو فیلیپین تبدیل نمیشه چون هیچ کدوم از اون کشورها به اندازه کافی از پول همدیگه ذخیره ندارن پس اونها به دلار و مجموعه از تراکنش های واسط وابستهاند. در وهله اول وون کره جنوبی در کشور کره تبدیل به دلار میشه و اون دلارها از طریق یک بانک آمریکایی که اینجا واسطه است از کره به فیلیپین ارسال میشه و در نهایت بانک دریافت کننده دلار در فیلیپین اون دلارها رو به پزو فیلیپین تبدیل میکنه و به دست صاحبش میرسونه این کار حداقل چند روزی طول میکشه و شامل کارمزد برای تبدیل ارزها به همدیگه و کارمزد برای تراکنش جابجایی خواهد بود این کارمزدها میتونن از 3 تا 15 درصد نسبت به مسیر جابجایی پول متغیر باشن میانگین جهانی کارمزد انتقال بین‌المللی پول حتی برای مقادیر کم حدود 7 درصده با اینکه پول دلار برای نظام مالی دنیا فواید بیشماری داشته اما در عین حال باعث سست شدن اقتصاد جهانی هم شده به این دلیل که اقتصاد هر کشوری به دلار آمریکا وابسته است و از فروپاشی دلار آسیب میبینه. در نتیجه سیستم اقتصادی دنیا طوریه که ورشکستگی چند بانک آمریکایی می‌تونه منجر به یه بحران اقتصادی بشه. حریم خصوصی مالی دیگر از بین رفته است. دیجیتالی شدن پول در طول دو دهه گذشته تقریبا باعث از بین رفتن حریم خصوصی شده. همه تراکنش‌های مالی برای مقاصد سیاسی و تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرن. پول الکترونیکی مدت زیادیه که وجود داره اما ابزار پردازش داده های بزرگ برای پایش و نظارت مؤثر بر اونها به تازگی فراهم شده. تا وقتی دولتها و شرکت تبلیغاتی هر روز بیشتر و بیشتر به اطلاعات شخصی و انتخاب و ارتباطات اشخاص سرک میکشند پرداخت آنلاین یا حضوری هیچ کدوم از این مسئله مسئول نخواهند بود این اطلاعات شخصی ردپاهایی منحصر به فرد هستند و با هر خرید یا تراکنش مالی دیگه دقیق تر و قابل تشخیص تر می برای همینه که امروزه وقتی شما یه محصول رو توی گوگل جستجو میکنین چند دقیقه بعد تبلیغ اون محصول یا مشابه اون رو توی تایملاین فیسبوک یا اینستاگرام خودتون مشاهده میکنین. این ردپای دیجیتال میتونه بسته به کشوری که در اون زندگی میکنین طبعات خطرناکی داشته باشه. در تابستان سال 2019 دهها هزار دانش آموز برای اعتراض به ترهی که استرداد شهروندان هنگ کنگی به چین رو تسهیل می کرد، تجمع کردند. اونا میدونستند اگه از کارت بیلیت های متروشون که به اسم واقعی اونها صادر شده استفاده کنند، حکومت می‌تونه از طریق اطلاعاتی که از طریق اون کارت های هوشمند به دست میاره، هر لحظه از موقعیت مکانی اونها مطلع بشه. برای همین، اونا از پول نقد برای خریدن بلیت مترو استفاده کردند. در حال حاضر میشه در دنیا از پول نقد استفاده کرد ولی با از بین رفتن اسکناس و سکه در دهه آینده دیگه راهی برای خرید بلیت مترو با پول نقد وجود نخواهد داشت و دا مجبوریم از کارتهای پلاستیکی که به اسم واقعی ما صادر شدن استفاده کنیم شرکتهای صادر کننده این کارتها به راحتی میتونند اطلاعات سفرهای ما رو با دولت و شرکتهای تبلیغاتی به اشتراک بگذارند ردپای دیجیتالی ما هر کجا رفته باشیم باقی خواهد موند. افکار عمومی در مورد ردیابی و پایش خریدها و رفتارهای خصوصی شهروندان متفاوته. بعضی از افراد دل خوشی از اون ندارن و این موضوع ناراحتشون میکنه. طیف دیگه ای هستن که این موضوع رو به شدت نکوهش میکنن و اون رو نقض آشکار حریم خصوصی میدونن. ادهی هم هستن که اصلا براشون مهم نیست. صرف نظر از این دیدگاهها یک حقیقت وجود داره و اون اینه که امروزه دولت ها نه تنها بر ارز پول کنترل دارن و شرایط جابجا کردن پول رو تعیین می کنن بلکه میتونند تقریبا هر چیزی که بخوان درباره خریداران و فروشندگان بدونن ممکنه سیستم های پرداخت الکترونیکی که در دنیا با سرعت زیادی در حال همگیر شدن هستند به طور کلی باعث انقراض حریم خصوصی انسان ها بشن آیا راه دیگری وجود داره؟ کم ارزش شدن پسانداز افراد به دلیل تورم، محدودیت‌هایی که برای انتقال و جابجایی پول در دنیا اعمال میشه، متمرکز بودن نهادهای مالی و از دست رفتن حریم خصوصی چهار پدیده جهانی هستند که بیشترین مخاطرات رو برای کاربران سیستم‌های مالی قرن 21 دارند. کشورهای دنیا برای حفظ وضعیت موجود تقلا میکنند و کسایی که فشار اصلی رو متحمل میشن در واقع مردم عادی هستند. چی میشد اگه یه سیستم جدید پدید می اومد که در اون دولت‌ها نمیتونستند پول رو از طریق ایجاد تورم بی‌ارزش کنند یا شرکت‌های گمنام جهانی نمیتونستند جلوی نقل و انتقال پول رو بگیرن. چی میشد اگه پول به طور کامل دیجیتالی میشد و هر کسی به اینترنت دسترسی داشت صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی میکنه میتونست بدون نیاز به کسب اجازه از سیستم های مالی جهانی از اون استفاده کنه در سال 2008 درست زمانی که بحران مالی ایالات متحده و جهان در حال شکل گرفتن بود یک نفر تصمیم گرفت این سیستم جدید رو از نو خلق و شرایط رو برای انقلاب مالی بعدی دنیا مهیا کنه فصل دو، بیتکوین چیست؟ روز پونزده سپتامبر 2008، بانک مشهور سرمایه گذاری برادران لیمن، بزرگترین ورشکستگی تاریخ ایالات متحده را اعلام کرد. فروپاشی برادران لیمن که در سال 1850 میلادی تأسیس شده، به دوران خوش وام وامهای بدون پشتوانه در جهان پایان داد. این شرکت بیشتر از کل ارزش اوراق بهادارش روی اوراق بهادار تضمین شده و وام های پر ریسک سرمایه گذاری کرده بود. وقتی خریداران خونه ها نتونستن از عهده پرداخت وام های گرفته شده بر بیان، راهی برای جبران خسارت نداشتند و در نهایت برشکسته شدن. ناگهان اعتماد بانک ها به مجموعه برادران لیمن و بانک های دیگه از بین رفت. در میانه این بحران اعتبار، صاحبان مشاغل متوجه شدند که به سختی میتونن برای تأمین مالی فعالیت های خودشون وام بگیرند. وقتی برای خرید مواد اولیه، سرمایه در تجهیزات جدید یا پرداخت حقوق کارمندان بودجه کافی موجود نباشه، شرکت های فعال در بسیاری از صنایع دیگه قادر به ادامه فعالیت نیستن و فروپاشی اقتصادی حتمیه. خزانداری ایالات متحده آمریکا و صندوق ذخیره فدرال سریعا وارد عمل شدند و برای نجات سیستم مالی به بانک ها وام اعطا کردند. در تاریخ 3 اکتبر 2008، کنگره با قانون استراری تثبیت اقتصادی سال 2008 به چندین بانک که دچار مشکل شده بودند کمک مالی کرد. دولت صدها میلیارد دلار برای رونق دادن به بخش مالی در حال فروپاشی هزینه کرد. شروع بیت کوین در تاریخ 31 اکتبر 2008 چند هفته بعد از اون که دولت ایالات متحده اجازه پرداخت 700 میلیارد دلار وسیقه به بانک‌ها رو صادر کرد یک شخص یا گروه ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو یک وایت پیپر فنی یعنی یک مقاله معتبر تخصصی و علمی که درباره یک موضوع مشخص نوشته شده منتشر و در اون یک سیستم جدید پرداخت الکترونیکی به نام بیتکوین کوین را تشریح کرد. ساتوشی وایت پیپر بیت کوین را به گروهی اینترنتی به نام سایفر پانکس ارسال کرد. گروهی متشکل از فعالان حریم خصوصی که برای به چالش کشیدن سوء استفاده دولت‌ها از قدرتشون و تحت نظر قرار دادن افراد ابزارهای کاربردی نرم افزاری خرید می‌کردند. دو نکته در این وایت پیپر بود که کنجکاوی خاننده رو بر میانگیخت. اولین که نویسنده از نام مستعار استفاده کرده بود هویت ساتوشی تا به امروز رازیه که همچنان برای همگان جذابه دومین که این مقاله چیزی رو مطرح میکنه که قبلا هرگز وجود نداشته پول دیجیتالی مستقل از حکومتهای مرکزی کمتر کسی فکر میکرد دستیابی به چنین چیزی امکان پذیر باشه چند ماه بعد ساتوشی شبکه بیتکوین را راهاندازی کرد و یک جمله به عنوان سرنخ در اولین سطر دفتر حسابداری بیتکوین قرار داد این جمله دلیل خلق بیتکوین رو توضیح می‌داد. روزنامه تایمز 3 ژانویه 2009 در آستانه تحویل وسیقه دوم به بانک این تیتر خبریه که در تاریخ سه ژانویه 2009 در روزنامه تایمز یکی از روزنامههای برجسته بریتانیا منتشر شد پیام ساتوشی به جهان این بود که سیستم مالی فعلی دنیا که در اون هزینه اشتباهات بانک ها رو مردم پرداخت میکنند ناکارآمده فناوری جدید غیرمتمرکز مالی بیتکوین ساخته شده تا راهی برای خروج از وضعیت کنونی باشه برای درک نوآوری علمی بیتکوین ابتدا باید مفهوم کمیابی رو بفهمیم. دو شکل مختلف از کمیابی در قلمرو مادی کمیابی به دو شکل خودش رو نشون میده. اولین شکل اون مصنوعیه. مثل ساخته های دست بشر از قبیل مجموع های کولکسیونی مثل کیف های دستی شنل کارت های بسکتبال مایکل جوردن شراب های نادر کارهای هنری یا آثار یک هنرمند به خصوص به این نوع کمیابی کمیابی متمرکز هم گفته میشه توجه کنیم که مشکل این نوع کمیابی اینه که امکان جل کردنش وجود داره دومین شکل اون به صورت طبیعیه این دسته شامل نمک شیشه شیشهای از کشور غنا صدفهای سفالی از فرهنگ بومی آمریکا نقره از چین و البته طلا در سراسر جهانه. اینها نمونه هایی از کمیابی غیر متمرکز هستند و جعل کردن اونها دشوارتره. استفاده از کالاهای غیر متمرکز و کمیاب مثل نمک و تلا به جای پول به هیچ وجه اتفاقی نبوده. دلیل اول اینکه که هر کس میتونه به طور عادلانه از کالایی که در کنترل هیچ فرد یا گروهی نیست استفاده کنه. دوم جعل این کالاها بسیار دشوارتره دلیل آخرین که کامیابی این کالاها باعث میشه معاملات اقتصادی به راحتی انجام بشن چرا که اگه کمیاب و با ارزش نبودن طرفین میبایست مقادیر زیادی از اونها رو با خودشون حمل میکردند چیزی که این دو نوع کامیابی مختلف رو از هم متمایز میکنه قابلیت کنترل پذیری اونهاست شکل اول کمیابی که به اون کمیابی متمرکز گفتیم توسط یک فرد یا یک شرکت پدید اومده حال میخواد بانک مرکزی چین باشه یا صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده خواه توسط یک هنرمند به وجود اومده باشه یا یک شرکت چند ملیتی بزرگ در هر صورت اون مرجع مرکزی میتونه کمیاب بودن اون کالا رو از راه های مختلفی مثل تولید، انتشار، باز خرید و مصادره کردن کنترل کنه. کالاهای کمیاب غیر متمرکز توسط طبیعت ساخته میشن. پس عرضه اونها بر عهده یک مرجع مرکزی نیست. این کالاها ساخته ی دست بشر نیستند که بتونه هر چقدر خواست از اونها تولید کنه. تنها راه به دست آوردن اونها جماوری یا برداشت از طبیعته. یه مدنچی، برای استخراج کالاهای کمیاب طبیعی مثل طلا یا نفت در واقع فقط چیزی که از قبل وجود داشته رو از دل زمین استخراج میکنه برای استخراج تلا همواره رضایت مالک معدن کافی بوده و علاوه بر اون لزومی به کسب اجازه از فرد یا نهاد دیگری نیست به عبارت دیگه خلق طلا در اختیار یک مرکز یا گروه خاص نیست و هیچ مرجع جهانی نمیتونه استخراج اون رو محدود یا ارزه اون رو زیادتر کنه. کنترل پذیری از جانب یه مرجع مرکزی فرق اساسی بین کالاهای کمیاب متمرکز و غیر متمرکزه. به ویژه کالاهایی که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرن. چرا تمرکز زودایی برای پول مفیده؟ همونطور که قبلا هم اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های غیر قابل انکار پول‌های متمرکز اینه که مسئول اون می‌تونه خودسرانه و هر وقت بخواد مقدار بیشتری از اونو خلق کنه هرچند این اتفاق بیشتر در رژیم‌های اقتدارگرا می‌افته تا نظام‌های مردم سالار در فیلم باگزی شخصیت اصلی بارها و بارها 20 از سهام کازینوی پینک فلامینگو رو به ده ها نفر و به قیمت ده هزار دلار میفروشه. اونها رو در مورد درصد شراکتشون به اشتباه میندازه چون هر سرمایه گذار خیال میکنه بیست درصد از کازینو رو در اختیار داره. اما در واقع اینطور نبود. ولی به هر حال باگزی سود بالایی از این معامله ها نصیبش میشد. انگیزه نهاد یا مقام مسئول یک دارایی متمرکز مثلا هنرمندی که اثر هنری خلق میکنه اینه که هر چه بیشتر از اون تولید کنه هرچند این کار اون باعث کم ارزش شدن دارایی افراد دیگه بشه همه دارایی های متمرکز با این چالش روبرو هستند بانک های مرکزی معمولاً برای اهداف سازنده ای مثل ایجاد زیرساخت ها حمایت از برنامه‌های رفاه اجتماعی یا تثبیت یک بحران اقتصادی اقدام به چاپ پول می‌کنند اما اثر کانتیلون رو از فصل یک به خاطر بیارید حتی استفاده معقول از این قدرت ممکنه باعث بهرمند شدن هرچه بیشتر ثروتمندان به قیمت ضعیفتر شدن فقرا و قشر آسیب پذیر جامعه بشه. توانایی چاپ پول کشمنشی ایجاد میکنه. کشمنشی توی اقتصاد یعنی یکی از طرفین معامله از رانت اطلاعاتی برخوردار بشه و بین معامله گران تقارن اطلاعاتی برقرار نباشه. البته که پول غیر متمرکز هم میتونه کم ارزش بشه. های جدید میتونن هزینه تولید کالاهای کمیاب طبیعی رو تر و در نتیجه بازار رو از این کالاها اشباع کنن. وقتی یه کالا دیگه کمیاب نباشه، از ارزشش کاسته میشه و دیگه نمیشه به عنوان پول بهش اعتماد کرد. دقیقاً برای همینه که امروزه دیگه کسی از نمک و های دریایی و مهر‌های شیشهای به عنوان پول استفاده نمیکنه هر کدوم از اونا به مدت طولانی توی طبیعت کمیاب بودن ولی امروزه به خاطر پیشرفت فناوری به شدت ارزون و آسون به دست میان. تلا یکی از موارد استثنایی که تونسته ارزش خودش رو حتی بعد از گذشت هزاران سال به طور چشمگیری حفظ کنه. تلا کاربرد صنعتی و تزینی هم داره اما چون استخراج اون در طول تاریخ همواره دشوار بوده تبدیل به پولی قابل اعتماد بین همگان شده قدرت خرید تلا ثابته و این باعث میشه گزینه خوبی برای حفظ ارزش باشه تا جایی که امروز مردم برخی از کشورهای دنیا برای مسون موندن از عواقب بحرانهای اقتصادی از طلا و جواهرات استفاده میکنند اشکال بزرگ تلا ذات مادی و وزن بالای اونه این دو اشکال نگهداری تامین امنیت و نقل و انتقال اون رو خیلی دشوار میکنه. بسیاری از طرفداران بیت کوین این ارز دیجیتال ممکن روزی برای حفظ ارزش و پسانداز بلند مدت جایگزین طلا بشه. همونطوری که در ادامه این فصل توضیح میدیم کمیابی بیت کوین از نوع غیر متمرکز و کمیابتر تر از تلاست. اما با این وجود نقل و انتقال و ذخیره امن اون، بسیار آسون تر است. کمیابی دیجیتال غیر متمرکز با ظهور اینترنت امکان تبدیل اطلاعات به دادههای دیجیتالی و توضیح آسان اونها فراهم شد. کپی یک فایل دیجیتالی خیلی آسون تر و ارزون تر از تکثیر نسخه فیزیکی اونه. دیجیتالی شدن پول برای تجارت الکترونیک ضروری بود و با استفاده از اون دیگه نیازی به نقل و انتقال فیزیکی پول نبود. هر چیزی رو میشه به سرعت فرستادن یک ایمیل یا باز کردن یک وبسایت به هر هرجا ارسال کرد و این باعث میشه که تجارت به معنی واقعی کلمه جهانی باشه. نسخه دیجیتالی پول فیات رو بانک ها به وجود میارن و شرکت های کارت های اعتباری مثل ویزا یا Master خورد فروشی های مثل علی بابا، آمازون و اپل یا حتی اپلیکیشن های پرداخت ساز مثل ویچت، پیپل و سکویر اونها رو پردازش میکنن. این شرکت‌ها روی نقل و انتقال پول اختیار تام دارن و قادرن تراکنش های مالی رو سانسور کنن. اونا می‌تونن برخلاف میل کاربران پول‌هاشون رو مصادره و حساب‌هاشون رو مسدود کنن. علاوه بر این به دلیل متمرکز بودنشون، اغلب هدف فشار دولتها و حملات هکرها قرار میگیرند و در نتیجه سرمایه و اطلاعات شخصی مشتریان همواره در معرض خطر از دست رفتنه تا پیش از ظهور بیتکوین هر پول دیجیتالی دو اشکال عمده داشت اینکه کمیاب بودن اون مصنوعی بود دوم اینکه تحت کنترل یک مرجع متمرکز اداره میشد به نظر نمیرسید راهی برای خلق کمیابی در حوزه دیجیتال وجود داشته باشه ساتوشیناکاموتو در 31 اکتبر سال 2008 بیت بیتکوین رو به عنوان یک ارز دیجیتال معرفی کرد کمیاب بودن بیتکوین ریشه در ریاضیات داره اعداد اول از نادرترین اعداد در علوم ریاضی هستند یک عدد اول مثل دو سه یا پنج فقط بر عدد یک و بر خودش بخش پذیره هرچی اعداد بزرگتر اعداد اول کمیابتر میشن. برای مثال بین عدد یک تا صد بیست و پنج عدد اول وجود داره ممکنه فکر کنین حتما بین اعداد یک تا هزار 250 تا عدد اول باشه ولی فقط 168 و, شست و هشت عدد اول در این محدوده موجوده اعداد اول بزرگتر از عدد 100 میلیارد فوق العاده کمیابند به قدری که ریاضی دانان جهان همچنان در حال جستجوی پیدا کردن بزرگترین عدد اول هستند اعضای شبکه بیت کوین برای پیدا کردن اعداد کمیابی شبیه به اعداد اول با هم رقابت می کنند و از طریق اون بیت کوین های جدید خلق میشه با این روش میتونیم کمیابی غیر متمرکز دیجیتال پدید بیاریم دلیل بنیادی بودن نوآوری ساتوشی هم دقیقا همینه قبل از بیت هر دارایی یا کاملا متمرکز بود مثل توکن‌های بازی‌های کامپیوتری که توسط شرکت سازنده بازی تولید میشن یا فیزیکی بود مثل طلا و نقره یا به وفور همه جا پیدا می‌شد مثل فایل‌های فشرده سوتی. تا قبل از ظهور بیتکوین کوین که همزمان غیر متمرکز دیجیتال و کمیاب باشه وجود نداشت. استخراج بیتکوین پردازش غیر متمرکز تراکنشها. بیتکوین ذاتن غیر چون مثل تلا کمیابی طبیعی داره و استخراج اون دشواره. استخراج بیتکوین شبیه به استخراج تلا جستجو برای یافتن چیزی کمیاب در میان انبوه چیزهایی که به وفور پیدا میشن. وقتی یک ماینر بیتکوین عدد کمیاب درستی رو که در جستجوی اون بوده پیدا کنه دیگران میتونن اعتبار این عدد رو به راحتی بسنجن دقیقا مثل تلا که به راحتی میتونیم اون رو از طلای بدلی تشخیص بدیم برای توضیح ماینر به فردی گفته میشه که به کار استخراج بیتکوین مشغوله استخراج کنندگان بیتکوین به جای استفاده از کلنگ و ماشین های از کامپیوترهای خیلی قدرتمند برای پیدا کردن اعداد کمیاب خاص استفاده می کنند. به هر کدوم از این اعداد کمیاب پیدا شده اثبات کار میگن چون به همه ثابت میکنه بنده این عدد برای پیدا کردنش تلاش و هزینه کرده. همانند طلا برای استخراج بیتکوین نیازی به کسب مجوز از هیچ نهاد یا مقام مسئولی نیست. هر کسی میتونه نرمافزار استخراج بیتکوین رو از اینترنت دانلود کنه و به جستجو برای اعداد نادری که مورد تایید شبکه هستند بپردازه استخراج بیتکوین بر طلا ویژه ای داره چون نیازی به خاک یا زمین مخصوصی نیست و فقط تجهیزات کامپیوتری و منبع انرژی الکتریسیته ارزان کفایت میکنه بنابراین ماینر های شبکه بیت کوین میتونن به طور مستقل به دنبال اعداد اثبات کار مورد تایید شبکه بیت کوین بگردن. بیت با روشی که توضیح دادیم میتونه بدون هیچ گونه نقطه ضعفی کار کنه. اون رو با سیستم های متمرکز مقایسه کنیم اگه شبکه شرکت کارت اعتباری ویزا از کار بیفته، هیچکس نمیتونه از کارت ویزا برای پرداخت استفاده کنه. همین موضوع در مورد شبکه پیپل و آمازون هم صادقه. برخلاف شرکت هایی که نام برده شد، شبکه بیتکوین تحت نظارت و کنترل یک مرجع مرکزی نیست که با از کار افتادن اونها کل شبکه دچار مشکل بشه. هیچ کس در شبکه بیتکوین قادر نیست یک تراکنش مشخص رو سانسور کنه. شبکه مهار نشدنی ماینرهای بیتکوین، با پردازش تراکنش های شبکه بدون نیاز به هر گونه مرجع متمرکز کمک بزرگی به اون می کنه. یه تراکنش بیتکوین چطور کار می کنه؟ برای درک این موضوع، سیستم حسابداری بانکی که احتمالاً آشنایی بیشتری با اون دارید رو در نظر بگیرید. وقتی کسی پول یک کالا یا خدمات رو با چک پرداخت می کنه، گیرنده یه چک به بانک میره تا اون رو به حساب خودش بخوابونه با این فرض که خریدار و فروشنده هر دو مشتری یک بانک هستند، کافیه بانک از حساب خریدار کم و به حساب فروشنده اضافه کنه این فرایند با اضافه کردن دو سطر در دفتر حسابداری بانک انجام میشه یعنی لازم نیست کارکنای بانک به گاف صندوق برن و از پولهای خریدار بردارن و به پولهای فروشنده اضافه کنن به کارگیری دفتر کل در حسابداری مالی یک نوآوری کلیدی و باعث سهولت نقل و انتقال پوله. یک تراکنش در شبکه بیت کوین چیزی شبیه به چک در سیستم سنتی بانکیه. بیت کوین با دفتر کل مخصوص خودش به نام بلاکچین کار میکنه هزاران نفر در سرتاسر سر دنیا نرمافزار بیت کوین رو اجرا می‌کنن و از طریق اون میتونن همواره درستی بلاکچین رو بدون نیاز به یک مرجع مرکزی تعیید کنن. هر کس با اجرای این نرمه در واقع یه نسخه کامل از دفتر کل رو در اختیار داره و نقل و انتقال های جدید رو به محض دریافت بازبینی می این کار یعنی راهانداختن یک فول نود. فول نود به نرمه افزار کوینی گفته میشه که هر کس می تونه با اجرا کردن اون اعتبار دفتر کل حسابداری بیت کوین رو بازبینی و از درستی اون اطمینان حاصل کنه. هر یک از این فول ها همواره در حال بررسی شبکه هستند تا از اجرا شدن همه قوانین بیتکوین در شبکه مطمئن شن. این کار باعث میشه هیچ مرجع مرکزی قادر نباشه خود خودسرانه سابقه تراکنش ها رو تغییر بده و بیت کسی رو به سرقت ببره یا خرج کنه بلاک چین به بلاک عمومی معروفه چون هر کسی میتونه سابقه تراکنش ها رو در اختیار داشته باشه و اونها رو بازبینی کنه تراکنش صاحبان بیتکوین هم شبیه به نوشتن یک برگه چک کار میکنه. اونها رقم رو بر روی چک نویسند و اون رو امضا میکنن. اما امضا روی یک برگه به راحتی قابل جعل شدنه. امضای تراکنش‌های بیت کوین یک امضای دیجیتالی بر پایه علم رمزنگاریه. این امضای دیجیتال توسط رمزی ساخته میشه که فقط در اختیار صاحب بیتکوینه. به این رمز کلید خصوصی میگیم. دارنده ی بیتکوین میتونه با استفاده از این کلید خصوصی ثابت کنه صاحب واقعی اون بیتکوین هاست. کاربرها کوین هاشون رو بر روی یک کیف پول ذخیره میکنن. این کیف پول در واقع نرم افزاریه که میتونه روی یک کامپیوتر یا تلفن همراه نصب شه یا یک وسیله سخت افزاری مخصوص برای ذخیره اون باشه. هر لحظه تراکنش های جدیدی در سرتاسر سر دنیا از طریق این کیف پول ها ساخته میشه ولی شبکه بیت پردازشگر مرکزی برای پردازش این تراکنش ها نداره. در عوض، ماینرها در سرتاسر سر دنیا برای وارد کردن این تراکنش ها به دفتر حسابداری کل بیتکوین با هم رقابت می‌کنند. اونها تجهیزات پردازشگرشون راه اندازی کردند و سعی می‌کنند اعداد نادر مورد قبول شبکه را پیدا کنند. تقریبا هر ده دقیقه یک ماینر در یک نقطه از دنیا عدد اثبات کار مورد قبول رو پیدا میکنه و گروهی از تراکنش ها که در سطح پردازش بودن رو در قالب یک بلاک با هم ادغام میکنه و این بلاک ساخته شده رو برای تایید اعتبار به شبکه بیتکوین کوین ارسال میکنه هر بلاک شبیه به یک صفحه جدید در دفتر حسابداری جهانی بیتکوینه و همه فول شبکه در سر تا سر دنیا برای اطمینان از صحت تراکنش های هر بلاک اونها رو مورد بازبینی قرار میدن هر کس میتونه یک فول نود رو اندازی کنه پس هزاران کاربر در سر تا سر دنیا درستی هر بلاک جدید رو با استفاده از فول نود خودشون بازبینی میکنن اگر این بلاک ارائه شده مورد تایید شبکه باشه اون وقت ماینر اون بلاک می تونه بیتکوین بیت کوین به عنوان پاداش برای خودش در نظر بگیره و اون بلاک و همه تراکنش هایی که در اون هستن جزئی از تاریخچه ابدی و تغییرناپذیر بیت کوین میشن. در زمان نگارش این کتاب یک تراکنش عادی بیت کوین معمولاً در کمتر از یک ساعت بر روی بلاکچین چین ثبت میشه. چون بلاکچین چین بیت کوین مجموعی از ها یا به عبارت دیگه مجموعه ای از اوراق دفتر کل بیتکوینه، این نام رو بر روی اون گذاشتن. به عبارت دیگه، بلاکچین یعنی همه تراکنش های دفتر کل تغییرناپذیر ناپذیر بیتکوین از زمان به وجود اومدن اون در ژانویه سال 2009. شبکه بیت بیتکوین از هزاران فول نود در سرتاسر سر دنیا ساخته شده که هر کدوم از اونها درستی هر بلاک ارائه شده از طرف ماینرها رو به طور مستقل تایید میکنه. برای راهانداختن یک فول نود در شبکه بیتکوین نیازی به فراهم کردن سخت افزار قوی نیست و بیشتر لپ های امروزی میتونن نرم افزار بیت رو اجرا کنن. تا وقتی راه و اجرای فول نود ارزان و امکان پذیر باشه، شبکه بیتکوین کوین غیر متمرکز باقی خواهد ماند. سیاست پولی بیتکوین سیاست پولی بیتکوین ساده و تغییر نپذیره. برخلاف سیستم مبهم و متغیر بانکداری مرکزی که امروزه در دنیا رایجه کوین های جدید چگونه خلق میشن؟ همونطور که توضیح داده شد بعد از اینکه یک ماینر عدد اثبات کار معتبری پیدا کرد و یک بلاک با مجموعی از تراکنش های معتبر و در انتظار تایید ساخت تونه پاداش ساختن این بلاک جدید رو دریافت کنه. در زمان نگارش این کتاب، پاداش هر بلاک معتبر جدید بیت بیتکوینه و هر چهار سال این مقدار نصف میشه. یعنی این مقدار در سال 2020 به 6 و 25 و در سال 2024 به 3 ممیز 125 هزار کاهش پیدا میکنه. اگه ماینر مورد نظر مقدار بیشتری از پاداش تعیین شده به عنوان پاداش بلاک برای خودش در نظر بگیره این بلاک مورد پذیرش فول هایی که همه بلاک ها رو بازبینی میکنن قرار نخواهد گرفت فول ها همه بلاک هایی که ماینرها به شبکه ارسال میکنند رو مورد بررسی قرار میدن و اگه اونها از همه قواعد بیتکوین پیروی نکنن به بلاکچین اضافه نخواهند شد مثل وقتی که بانک چک فردی رو که رقمی بیشتر از موجودی حسابش نوشته رو قبول نمیکنه. بنابراین کسی نمیتونه بیت کوین تقلبی بسازه. فول نوت ها، تراکنش های جعلی یا بلاکی که چنین تراکنشی در اون باشه رو نمیپذیرن و رد میکنن. یک بلاک نامعتبر برای ماینرها خیلی گرون تمام میشه. چون وقتی مورد قبول شبکه قرار نگیره یعنی در واقع همه ی انرژی که تجهیزات استخراج اون برای پیدا کردن عدد اثبات کار مصرف کردن تلف شده این یعنی بهای به تقلب کردن در شبکه بیت کوین خیلی سنگینه و در نهایت باعث محافظت از شبکه بیت کوین میشه با این حال اگر تعداد فول نودهای موجود در شبکه بیت کوین کم باشه یک ماینر میتونه با تطمیع اونها بلا نامعتبرش رو وارد بلاکچین کنه. از اونجا که هزاران فول نود در شبکه بیتکوین وجود دارن که در سر تا سر دنیا پراکنده هستن و هیچ شناختی نسبت به همدیگه ندارن موفق به انجام چنین کاری نخواهد شد. ساتوشی از روز اول سقف تعداد کل بیتکوین هایی که عرضه خواهد شد رو 21 میلیون تعیین کرد. در زمان نگارش این کتاب، بیشتر از 85 درصد این مقدار استخراج شده و بیشتر از 17 میلیون بیت کوین در گردشه بقیه اونها هم به عنوان پاداش ساخت بلاک و در یک برنامه زمانبندی مشخص عرضه خواهند شد. فناوری بلاکچین همچنان منتظریم. افراد زیادی تلاش کردند تا موفقیت نوآوری ساتوشی رو تکرار کنند. یک روش متداول به کار بردن بلاکچین بیتکوین برای استفاده های دیگه است. از سال 2014 شرکت های معروفی تلاش کردن مدل بلاکچین بیتکوین رو در صنایع مختلف به کار بگیرن و تا حالا میلیون ها دلار برای اون هزینه کردند. این موضوع توجه رسانه ها و مردم رو بیش از حد به تکنولوژی بلاکچین جلب کرده. متاسفانه این تلاشها بیشتر شبیه اینه که با یه لیفتراک به مغازه خاربار فروشی بریم. بلاکچین میتونه به درستی برای ذخیره دفتر کل حسابداری یک پول دیجیتال و غیر متمرکز به کار گرفته بشه. ولی به نظر میرسه برای کاربردهای دیگه مثل بایگانی اطلاعات خدمات درمانی، ردگیری میوه روی بلاکچین و قرار دادن اطلاعات هواشناسی روی بلاکچین کند و بیفایده و ناکارآمد باشه. بیت کوین چهار ویژگی مهم داره که بلاک تنها یکی از است. اول اینکه بیت کوین یه دارایی دیجیتال و کمیابه. دوم اینکه کسی قادر به غیرفعال یا خاموش کردن شبکه فول نودهای همتا به همتا نیست. سوم اینکه در فرایند استخراج بیت کوین هزینه تقلب در اثبات کار بسیار سنگینه. چهارم اینکه بیت کوین بلاک داره و همه میتونن به اون دسترسی داشته باشن و درستی اون رو بررسی کنن این چهار بخش با همدیگه همبستگی تنگا تنگی دارن و حذف کردن فقط یکی از اونا باعث مختل شدن کل شبکه کوین میشه توضیح اینکه که شبکه همتا به همتا نام گونه ای از معماری شبکه های کامپیوتریه که در اون کامپیوترهای متصل به هم بدون نیاز به سیستم مدیریت مرکزی با همدیگه تبادل داده میکنند برای یه دارایی دیجیتال محص مثل بیت کوین میشه برای بایگانی کردن سوابق تراکنش های مالی از تکنولوژی بلاکچین استفاده کرد. این روش باعث میشه بتونیم تعداد بیت کوین های خلق شده و سابقه همه نقل و انتقال ها رو بدون خطا روی اون ذخیره کنیم. اما برای چیزهایی که در دنیای واقعی موجود هستند، مثل دانه های قهوه، و اطلاعات خدمات درمانی هیچ تضمینی برای صحت اطلاعات وارد شده نیست چون همیشه ممکنه اطلاعات ورودی به دلیل اشتباه کاربر بیتوجهی یا حتی کلاهبرداری همراه با خطا وارد سیستم بشن امکان بروز خطا یعنی نیاز به وجود یک مرجع مرکزی برای زمانت درستی اطلاعات که اصل استفاده از بلاکچین رو زیر سوال میبره با این وجود تا حالا برای کشف کاربردهای غیرپولی تکنولوژی بلاکچین مبالغ هنگفتی پول هزینه شده. تا زمان نگارش این کتاب هیچ کس قادر نبوده سیستمی در مقیاس بزرگ و بر پایه تکنولوژی بلاکچین برای نگهداری سوابق خلق کنه که از روشهای رایج امروزی کارآمدتر باشه یا حتی با اونها برابری کنه. بقیه ارزهای دیجیتال چطور؟ مردم فقط به کپی کردن بلاکچین بیتکوین اکتفا نکردند، بلکه تلاش کردن رمز ارزهای دیگه هم بسازند. کلمه رمز توی اسم اونها قرار داره چون برای ارسال اونها فرستنده باید مثل بیتکوین از امضای دیجیتال استفاده کنه در واقع کلمه کریپتو در کلمه کریپتوکارنسی اشاره به علم رمزنگاری داره این پروژه ها که اغلب به اونها آلتکوین یا توکن میگن متمرکزن و بیشتر اونها علنا کلاهبرداری هستند بیت کانکت یکی از معروفترین ترین کلاهبرداری های حوزه ارز دیجیتاله شاید تعداد کمی از این رمز ارزها بتونن کاربرد معقولی داشته باشند. مثل مونرو و زیکش که تلاش میکنن تراکنش های کاربرانشون نسبت به بیت کوین محرمانه تر باشه یا اتریوم که تلاش میکنه به عنوان یک پلتفرم برای ساختن اپلیکیشن های بلاکچین مورد استفاده قرار گیره شرکت های بزرگ هم ارزهای دیجیتالی رو امتحان میکنن فیسبوک ارز دیجیتالی به نام لیبرا معرفی کرده که ممکنه به خاطر میلیاردها نفر کاربری که هر روز از خدمات فیسبوک استفاده میکنن متداول شه هر چند لیبرا ذاتن متمرکز و مثل بیت کوین غیر قابل سانسور و کمیاب نیست اوایل سال 2020 سازمان های تنظیم و آمریکا و اروپا انتقادات زیادی بر این پروژه داشتند و این پروژه را تحت فشار قرار دادند و آینده اون همچنان در حال از ابهامه گروه های دیگری هم بودند که تلاش کردند موفقیت ساتوشی رو به روشی بیشرمانه کپی کنند و ارزهای دیجیتالی ساختند که نام بیت کوین در اونها وجود داره این موضوع باعث سردرگمی افراد مخصوصاً تازه واردها میشه چون معلوم نیست یک از اونها واقعیه بیتکوین در صرافی ها و کیف پول ها با نماد BTC مشخص میشه بقیه اونها شبیه به طلای بدلی هستند ممکنه شبیه بیتکوین کوین باشن ولی متمرکزن و قیمت اونها در بازار خیلی پایین تره ارز دیجیتال بیتکوین کش بیتکوین کوین گلد و بیتکوین کوین SV جزو همین گروه طلای بدلی هستند اهمیت بیت کوین برای حقوق بشر. ابداع بیت کوین باعث شد افراد قادر باشند نتیجه کار و تلاششون رو پسنداز و ثروتشون رو به صورت الکترونیکی ذخیره کنن. این کار باعث میشه ها و شرکت‌ها نتونن هر طور که بخوان بر نحوه پسنداز یا انتقال پول شهروندان کنترل داشته باشن. این انقلاب مالی بر حقوق بشر جهانی موثر بوده و در آینده اثر بیشتری هم خواهد داشت مخصوصا توی کشورایی که تحت حکومتهای دیکتاتوری هستند اما کشورهای آزاد و مردم سالار هم از این قاعده مستثنا نخواهند بود در فصل یک از کسایی گفتیم که توی نیجریه و ونزوئلا زندگی و با تورمهای بالا دست و پنجه نرم میکنند فعالیت‌های مالی اونها تحت نظر دولته به خدمات بانکی دسترسی ندارن و زیرساخت های اقتصادی کشورشون ورشکسته است. این نمونه ها توی دنیا رایجن. بر اساس داده های بنیاد حقوق بشر تقریبا نیمی از جمعیت جهان تحت حکومت اقتدارگرا زندگی می کنن. یعنی حدود چهار میلیارد نفر از کوبا تا بلاروس از عربستان سعودی تا ویتنام توسط دولت هاشون سرکوب میشن خیلی از اونها پناهندگان اقتصادی یا زندانیان سیاسی هن. این افراد از حمایت قانون برخوردار نیستند و حتی نمیتونند برای اصلاح وضع موجود به صورت سلحامیز اعتراض کنند. دولت های اروپا و آمریکا هم حتی بعضی اوقات شهروندانشون رو تحت نظر قرار میدن و از طریق ایجاد تورم به اونا فشار اقتصادی وارد می‌کنن. جبران ضرر مالی بانک ها از طریق کمک مالی به اونها، مداخله نظامی توی کشورهای دیگه جهان، تقویت امنیت مرزها و های رفاهی برخی از کارهای سوال برانگیزی هستند که دولت ها از طریق چاپ پول بدون پشتوانه قادر به انجام اونا هستند. وقتی شهروننده یک کشور مجبور به استفاده از یک سرویس پرداخت مرکزی مثل ویچت چینی هستند که زندگی میلیون ها نفر رو تحت نظارت شدید قرار میده. وقتی حساب بانکی یک گروه حقوق بشری به فرمان یک دیکتاتور مسدود میشه. یا وقتی تحریم ها باعث میشه مردمان یک کشور تاوان جنایت هایهکرانان این رو بدن که حتی انتخابشون نکردن، بیت کوین میتونه به عنوان یک راه جایگزین به کار گرفته شه. اختراع ساتوشی میتونه به صدها میلیون نفر که برای به کار گرفتن پول به خدمات بانکی دسترسی یا اسناد هویتی ندارن کمک بزرگی کنه. هر کسی توی هر کجای دنیا با استفاده از ارتباط اینترنتی و یک گوشی تلفن همراه میتونه بدون معطلی و خیلی ارزون از هر کسی در هر کجای دنیا بیت کوین دریافت کنه. بدون اینکه ترسی از توقیف یا سانسور شدن اون تراکنش داشته باشه در نتیجه کوین میتونه قواعد بازی نقل و انتقال پول در جهان رو تغییر بده و علاوه بر این پتانسیل بهبود جنبههای دیگری از مسائل اجتماعی رو هم داره بیت کوین یه بازار واقعا جهانی برای محصولات و خدمات به وجود میاره و میتونه راه رو برای شرایط برابر هموار کنه بانک خودت باش. کنترل حاکمای دیکتاتور بر سیستم بانکی توی کشورهایی مثل بحرین و روسیه و زیمبابوه موجب پدید اومدن فساد و های گسترده میشه. بیت کوین شرایط رو برای به وجود اومدن دنیایی هموار میکنه که در اون دولتها و ها از اختیار کمتری برخوردارن و در عین حال افراد آزادترن و حق انتخاب دارند. اختیار تام بیتکوین در اختیار فردیه که کلید اون رو در دست داره. مثل یه چک حامل که هر کس میتونه به بانک ببره و اون رو نقد کنه. علاوه بر این وقتی برای کسی بیتکوین ارسال کنین دیگه هیچ واسطه ای وجود نداره که بخواد هویت فرد فرستندر و فاش یا از انجام اون تراکنش جلوگیری کنه. این ویژگی بیتکوین باعث میشه دارندگان اون در مقابل سارقان، شرکت های وابسته و دولت هایی که افراد رو تحت نظر قرار میدن مسئولیت داشته باشند. هیچ عرض یا شرکت خدمات پرداختی در دنیا نیست که بتونه امنیتی در این سطح برای کاربراش فراهم کنه از زمان قدیم مردم کشورهایی که مدیریت اقتصادی دولتشون ضعیف بود یک راه برای حفظ پولشون بلد بودن و اون پنهان کردن پول توی بالش و تشکه مشکل این روش اینه که به سختی میشه محل امنی برای اسکناس پیدا کرد و نقل و انتقال فیزیکی اون کار آسونی نیست اگه مامورای حکومتی به پولهای پنهان شده در منزل کسی دست پیدا کنن میتونن اونو تصاحب کنن اما بیت رو به راحتی میشه با امنیت بالا ذخیره کرد چون کلید یا رمز اون رو میشه روی یک تیکه کاغذ یا یک کامپیوتر یا یه فلش مموری نگهداری کرد یا اصلا اون رو به خاطر سپرد به راحتی میشه داشتن بیت کوین رو انکار کرد و معمورای حکومتی هم برخلاف اسکناس نمیتونن راحتی اون رو تصاحب کنن راه نجات از تورمهای بالا مردم کشورهایی مثل ایران و سومالی تحت سلطه رژیمایی زندگی میکنن که بی پول چاپ میکنن و از این طریق پس که مردم به سختی اندوختند رو کم ارزش می کنن. چاپ بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزی ایران باعث به وجود آمدن تورم بی سابقه ای شده که باعث بالا رفتن قیمت‌ها در همه بازارها شده. به گزارش بانک مرکزی در 5 ماه اول سال 99 روزانه 2200 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده. همه گه بانک های مرکزی دنیا در به وجود اومدن تورم نقش دارند. اونا عموماً برای چرخیدن چرخ بازارها کمی پول به اقتصادشون تزریق می‌کنند. حکومت های مردم سالار ممکنه محدودیت هایی برای این کار داشته باشند، ولی همونطور که قبلا مشاهده شد تورم میتونه خیلی زود از کنترل خارج بشه. طبق شاخص قیمت مصرف کننده بین سالای 2018 تا 2019 قیمت کالاها توی کشور آلمان یک و هفت همه درصد و در ایالات متحده یک و نه ده همه درصد افزایش داشتند. توی خیلی از کشورهای دیگه قیمت کالاها خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده. مثلا سه و هفتاد و پنگ سدومه درصد در برزیل، پنج درصد در هند، یازده درصد در نیجریه، 20 درصد در ترکیه و یک افزایش شدید چهل و هفت درصدی در آرژانتین. مردم کشورهایی که افزایش قیمت توی اونها بیش از ده درصده شاهد کم ارزش شدن ناگهانی درآمد و پساندازشونند. توی کشور ونزوئلا قیمتها به خاطر چاپ بی پول و فساد سیستمی و سوء مدیریت اقتصادی توی سال 2018 تا دو میلیون و هزار درصد بالا رفت ابر تورم اونقدر شدید که باعث میشد پس انداز پول عملا غیرممکن باشه. پول از همون لحظه که به حساب افراد واریز میشه ارزشش کمتر و کمتر میشه. این باعث میشه مردم ونزئلا تا پولی به دستشون میرسه اون رو به کالاهای های اساسی مورد نیازشون تبدیل کنند. مردم ونزوئلا تحت سلط یک حکومت خودکامه زندگی میکنن که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب نشده و به مردم پاسخگو نیست در خلال چند سال گذشته بیشتر از چهار میلیون نفر از شهروندهای این کشور، یعنی بیش از ده درصد جمعیت، به کشورهای همسایه مثل برزیل و کلومبیا گریختند. این فاجعه یکی از هولناکترین بحرانهای مهاجرت در جهانه. رژیم حاکم بر ونزوئلا علاوه بر دوشیدن اقتصاد داخلی این کشور، طی 20 سال گذشته نظارت شدیدی بر سرمایه مردم اعمال کرده. جابجا جا کردن پول از مبدع یا به مقصد یک کشور خارجی فوقالعاده مشکله. است. امده ترین راه ارسال پول از طریق واسطه هاست که به هایی توی کشور مبدا و مقصد دسترسی دارند. یه واسطه که در ونزوئلا حساب بانکی داره، از فردی در کولومبیا پزش دریافت میکنه و معادل بولیوار اون رو در ونزوئلا به حساب اون فرد واریز میکنه. حتی این روش هم با اعمال فشار دولت به بانک ها متوقف شده. چون اونا باید افرادی که از بیرون ونزوئلا به حسابشون وصل میشن رو معرفی کنند. همونطور که توی فصل اول گفتیم رژیم حاکم بر ونزوئلا علاقه این نداره مردمش به پول پایدارتر و بهتری از بولیوار دسترسی داشته باشن. گزینهی دیگه برای مردم این کشور، اینه که دوستان یا اقوامشون دلار آمریکا به شعبه بانک وسترن یونین در شهری مرزی واقع در کلمبیا ارسال کنند. گیرنده باید به صورت غیرقانونی از مرز عبور کنه، به اون شهر بره، پول نقد رو دریافت کنه و دوباره در حالی که پول نقد رو توی لباسهاش پنهان کرده، بدون اینکه ماموران مرزی متوجهشن، به ونزوئلا برگرده. لازم به گفتن نیست که این روش زمانبر و خطرناکه چون مرزهای زمینی و هوایی این کشور پر از معمورایی که به دنبال توقیف پولهای نقد افراد هستند بیتکوین یه راه حل برای انتقال پول بین کشورهاست مردم ونزوئلا میتونند با استفاده از پیامک از دوستان یا اقوامشون تقاضای بیتکوین کنند و چند دقیقه بعد اون رو با کارمزد کمی دریافت کنند امکان نداره کسی بتونه جلوی این تراکنش رو بگیره و ردگیری اون هم کار مشکلیه. نوسان قیمت بیت کوین ممکنه برای کسایی که توی کشورهای با صبات مالی زندگی میکنن، بالا به نظر برسه. ولی نوسان قیمت شدید 20 درصدی بیت کوین برای مردم ونزوئلا که تورم دو میلیون و 300 هزار درصدی رو تجربه کردن، ناچیزه. اونا به محض اینکه بیت کوین رو روی تلفن همراه یا کامپیوترشون دریافت کنن میتونن به راحتی از طریق سایت هایی مثل localbitcoins.com یا وبسایت های شبیه به ای بی که خریداران و فروشندگان رو به هم وصل میکنه به پول خودشون تبدیل کنن. اونا میتونن بیت کوینی که تازه دریافت کردن رو برای فروش در این وبسایت ها ثبت کنند و کمتر از 15 دقیقه بعد معادل بولیوار اون رو در حساب بانکی خودشون دریافت کنند. این سیستم هر روز برای جابجایی ها دلار پول به ونزوئلا و از اون مورد استفاده قرار گیره. می در میانه سال 2019 میلادی بیتکوین کوین تونسته جایگزین سیستم اقتصادی و امید آخر مردم در اقتصادهای ورشکسته مثل ونزوئلا باشه. دسترسی جهانی به پول برای فردی که توی کشور با ثبات اقتصادی زندگی میکنه، افتتاح کردن حساب بانکی کار راحتیه. اما شرایط برای میلیاردها نفر در سراسر دنیا به این راحتی نیست. اوضاع در بعضی نقاط دنیا تجرب برانگیزه. تو افغانستان و عربستان سعودی، مردای خانواده به زنان خانواده اجازه باز کردن حساب بانکی شخصی نمیدن. این افراد، در واقع از حق آزادی اقتصادی بیت بیتکوین میتونه یه راه نجات برای این افراد باشه. در سال 2014 یک کارآفرین حوزه فناوری در افغانستان به اسم رویا محبوب با چالشی بزرگ روبرو شد. اون نمیتونست حقوق کارمندان خانم مجموعش رو به اونها بده چون اگه به اونها پول نقد میداد خانواده این پول نقد رو از اونها میگرفت. مردای خانواده هم که اجازه باز کردن حساب شخصی به اونا نمیدادند، سرویسایی مثل پیپل در کشور اونا در دسترس نبود. یکی از دوستان اون پیشنهاد کرد از بیت کوین برای پرداخت حقوق استفاده کنه و این کار باعث استقلال مالی اونها شد. یکی از این خانم‌های جوان به خاطر تهدیدی که برای جانش پیش اومده بود، باید از افغانستان فرار می‌کرد. اون بیت کوین ها رو روی تلفنش ذخیره کرد و با خودش برد. او از ایران و ترکیه رد شد و در نهایت به آلمان رسید. وقتی به اونجا رسید بیت هایی که خوشبختانه در طول سفر ارزششون خیلی بالا رفته بود رو به یورو تبدیل و یک زندگی جدید شروع کرد. بیت کوین میتونه به درمانده ها و کسایی که دسترسی به حساب بانکی ندارند و چاره برای انتقال پول ندارن کمک کنه. پیشرفت زیرساخت فنی بیت کوین و های فرد به فرد در آینده اثر بزرگی بر کمکهای خارجی و انسان دوستانه خواهد داشت. شاید یکی از واضحترین تصویرهایی که به خوبی نشون کمک کمکهای انسان دوستانه در جهان با چه مشکلی روبرو هستند، عکس منتشر شده از مرز ونزوئلا در فوریه سال 2019 باشه که در اون رژیم مادورو پلی مرزی رو با استفاده از کانتینرهای بزرگ مسدود کرد تا از ورود کمک های خارجی به داخل کشور جلوگیری کنه. چیزی که در عکس پیدا نیست، میلیون‌ها دلار بیت که خارج از کنترل دولت در حال ورود و خروج به ونزوئلاست. امروزه امروز ارسال کمک های انسان دوستانه های عجیب و غریب خاص خودشو داره. خواهی دولت بخواد کمکی به دولت یک کشور دیگه ارسال کنه؟ یا یه سازمان بشردوستانه دوستانه بخواد به یه سازمان مردم نهاد هدیهی بده؟ یا اصلا کسی بخواد به ای که برای تأمین درمان مشکل مالی داره کمکی ارسال کنه؟ تو همه این موارد پول باید از واسطه ها بگذره تا به مقصد برسه. حتی در ساده ترین حالت هم حداقل سه واسطه وجود داره. بانک ارسال کننده یه بانک مرکزی و بانک دریافت کننده. تعداد این واسطه ها معمولاً بیشتره و ممکنه حتی به هفت هم برسه. هر کدوم از اونها میتونن پروسه نقل و انتقال رو کند یا اون رو متوقف کنن یا حتی پول رو بدزدن. بانکیمون، دبیر کل قبلی سازمان ملل متحد در سخنرانی سال ش اعلام کرد که در خلال سال گذشته فساد باعث شده سی درصد از کل کمک مالی برای توسعه توی کشورهای جهان به مقصد خودشون نرسن. بر پایه تحقیقاتی که سازمانهایی مثل گیرکلی و بانک جهانی منتشر کردند، ارسال پول نقد به صورت مستقیم بهترین راه ارسال کمک های انسان دوستان است. برای ارسال بیت به هر نقطه از جهان اونم فقط در عرض چند دقیقه نیاز به کسب اجازه از هیچ احدی نیست. گیرنده پول نیازی به حساب بانکی یا مدارک هویتی نداره. فقط دسترسی به اینترنت کفایت میکنه. بر اساس تحقیقی که مرکز PEW منتشر کرده 45 درصد مردمی که توی اقتصادهای نوظهور زندگی میکنن، به تلفن هوشمند دسترسی دارند و این آمار همواره در حال افزایشه برای درک اثری که بیت میتونه در حوزه انتقال پول داشته باشه، فیلیپین رو در نظر بگیرید که فقط 20 درصد افراد بالغ حساب بانکی دارند. برای اینکه بیت کوین به عنوان یه سیستم پرداخت مورد استفاده قرار بگیره، دریافت کنندگان اون باید بتونن اون رو به پول رسمی کشورشون تبدیل کنن. بیت کوین در حال حاضر نمیتونه برای کارهای خیرخواهانه مورد استفاده قرار بگیره مگر اینکه بشه از اون برای خرید کالا و خدمات استفاده کرد بر پایه‌ی تحلیل دقیق که توسط مت آلبورگ انجام شده تبدیل بیت کوین به پول ملی برای شهروندان اقتصادهای نوظهور از شرق آسیا گرفته تا غرب آفریقا در حال آسانتر شدنه فراتر از این وقتی بانکهای سنتی تعطیل شدن شبکه بیت کوین به کارش ادامه خواهد داد در حالی که زیرساخت جهانیش بهبود میابه پذیرتر میشه و بیشتر مردم دنیا به اون دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین توانایی بیت برای کمک به نیازمندا به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. شبکه مش یا شبکه توری که تمام گره های اون مستقیما به همدیگه وصل میشن، سیستم ماورائی و سیستم‌های برپایه فرکانس رادیو روی شبکه بیتکوین ایجاد شدن تا مردم بتونن حتی بدون نیاز به اینترنت قادر به دریافت یا ارسال بیتکوین کوین باشن مهندسای نرم افزار روی پروژه‌های های ای که باعث میشه ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به بیتکوین از طرف دولت‌ها از این هم دشوارتر شه بیت کوین پولی که تورم پذیر نیست و براحتی نمیشه مصادرش کرد. جامعه ای بدون پول نقد. بهانه حذب پول نقد از یه جامعه اغلب آسونتر شدن کارهای روزمره شهروندانه. اما این کار به دولت‌ها و بانک‌ها قدرت بی سابقه ای می میده و از منظر حقوق بشر مخاطرات جدیدی به وجود میاره. پول نقد یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ حریم شخصی افراده. اگه پول کالا و خدمات رو نقد پرداخت کنیم، فقط فروشنده و خریدار از اون تراکنش خبر دارن و پیگیری رفتار خریدار برای حکومت دشواره. از طریق پرداخت های ناشناس نقدی میشه به نهادهای خیریه هم کمک کرد. متاسفانه، پول نقد در دنیا در حال از بین رفتنه. در کشورهایی مثل ونزوئلا یا سومالی که درگیر ابرتورم هستند، پول ملی به اندازه‌ای بیارزشه که باید اون رو کیلویی وزن کنند. در همین حال، شهروندان شهرهایی مثل استکهلم و شانگهای همه پرداختهاشون دیجیتاله. تخمین زده میشه که امروزه فقط 8 درصد از همه تراکنش های جهانی با سکه یا پول نقد انجام میشه. تا سال 2030 تعداد افرادی که واقعا میتونن از پول نقد استفاده کنند تقریبا نزدیک صفر خواهد بود با توجه به مسائلی که توی فصل اول شهر داده شد این موضوع میتونه چشمنداز ترسناکی برای تظاهرکنندگان هنگکنگی باشه که از پول نقد برای خریدن بلیت مترو یا سیم های ناشناس استفاده میکنن تا از حریم خصوصی خودشون در برابر دولت دفاع کنند. بدون پول نقد یا پول دیجیتالی شبیه به پول نقد هماهنگ کردن تظاهرات سیاسی و در عین حال حفاظت از حریم خصوصی کاری تقریبا غیرممکن خواهد بود در کشور استونی دولت حمل و نقل عمومی رو رایگان کرده این موضوع فوقالعاده نظر میرسه ولی یه شرط داره مسافرا برای مجانی سوار شدن باید از کارت شهروندی استفاده کنند پس دولت میتونه جابجایی اونها رو زیر نظر بگیره لازم نیست مردم استونی نگران این موضوع باشند اما شهروندان کشورهای همسایه مثل روسیه یا بلاروس با حکومت‌های مستبد دلایل محکمی برای نگرانی دارند در همین حال حزب کمونیست چین بر سیستم‌های پرداخت علی پی یا ویچت با بیش از یک میلیارد کاربر کنترل داره مسئولین این کشور فقط به نظارت کردن و کنترل پول مردم بسنده نمی‌کنن بلکه علاوه بر اون رفتار و عقاید شهروندانشون رو از طریق سیستم های اعتبار اجتماعی مدیریت می در سیستم های اعتبار اجتماعی مثل چیزی که در چین پیاده سازی شده، شهروندان نه تنها بر اساس سلامت مالی، بلکه بر اساس عقاید سیاسی، شخصیت و دایری اجتماعیشون امتیاز می دولت رفتار شهروندان وفادارش رو تشویق می‌کنه و کسانی که براش درست درست میکنند رو با جلوگیری کردن از مسافرت به خارج از کشور یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت پرسرعت یا فرستادن بچه هاشون به مدرسه های خوب یا گرفتن امتیاز مناسب برای وام بانکی مجازات میکنه. این سیستم های اعتبار اجتماعی هنوز کامل نشدن ولی در مسیری هستند که میتونن در آینده قدرت بی سابقه ای به حکومت چین بدن و باعث به وجود اومدن بزرگترین پروژه مهندسی اجتماعی. در تاریخ بشر خواهند شد. حتی توی کشورهای غربی که حکومت مردم سالار دارن، روند تازه ای در حال ظهوره که در آن شرکت‌های کارت اعتباری و تجار اطلاعات فعالیت‌های مشتریانشون رو به شرکت‌های تبلیغاتی می‌فرشن. اگرچه این موضوع به اندازه سیستم اعتبار اجتماعی چین ترسناک نیست. بیت کوین در مقابل برادر بزرگ برادر بزرگ نماد و چهره حکومتیه که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظارت و کنترل داره برای شناختن افراد کافیه به لیست خریدشون دسترسی پیدا کنین تا از این طریق به شخصیت واقعی اونا پی ببرین میتونین بفهمین چیکار میکنن؟ کی به کجا میرن چه چیزایی دوست دارند و از چه چیزایی خوششون نمیاد هرچه اطلاعات خرید افراد گسترده تر و دقیقتر تحلیل و بررسی بشه احتمال اینکه با پیامدهای اورولی مواجه شیم بیشتره به سیاستهای های کنترلی دولت سرکوبگر مدرن که معمولا از راه تبلیغات تحت نظر قرار دادن و شنود شهروندان انتشار اخبار نادرست انکار حقیقت و دستگاری گذشته اعمال میشه، رفتارهای ارویلی میگن. امروزه توی جوامع مردم سالار بر سر پولهایی که ممکنه توسط شرکتهای بزرگی مثل فیسبوک به وجود بیان بحث و مجادله های فراوانی در جریانه. شرکت فیسبوک میخواد پول جدیدی به نام لیبرا به وجود بیاره و اون رو از طریق اپلیکیشن های اینستاگرام یا پیامرسان این شرکت در دسترس صدها میلیون کاربر خودش قرار بده. پروژه های مثل لیبرا میتونن برای میلیاردها انسان محروم از خدمات بانکی در سرتاسر سر جهان امکان استفاده از خدمات بانکی فراهم کنند. اما بیم اون هم میره که فیسبوک با سو استفاده از قدرتی که پیدا میکنه سوابق پرداخت های کاربرانش رو ثبت و بایگانی کنه بر انتخاب های اونها تاثیر بگذاره یا اشخاص رو صرفاً به دلیل نظرات سیاسیشون از استفاده از این خدمات منع کنه برای متوقف کردن برادر بزرگ همگی باید از گسترش هرچه بیشتر ردپای دیجیتالی دادههامون جلوگیری کنیم هرچی اطلاعات مرتبط به هویت واقعی ما کمتر منتشر و بین شرکتها و دولتها به اشتراک گذاشته شه نظارت دستگاری عقاید و کنترل افراد دشوارتر خواهد بود. جامعه بدون پول نقد جامعه یه که در آن مردم تحت نظر هستند. خواه این نظارت توسط دولت ها و از طریق سرویس های بیچت باشه، خواه از طریق لیبرا که تحت کنترل شرکت های بزرگه. در هر صورت این شرکتها میتونند تمام فعالیت های اقتصادی افراد رو چه برای سود بردن، چه برای سرکوب و حتی مقاصد بدتر ردگیری کنند؟ چی میشه اگه آینده متفاوت باشه؟ اگه پول نقد دیجیتال وجود داشت چطور میشد؟ هرچند در حال حاضر تراکنش های بیت کوین به طور کامل ناشناس نیستند، اما در جامعه توسعه دهنده های فنی بیت کوین کارهای زیادی در حال انجامه که به موجب اونها، حریم خصوصی شبکه و کاربران بیتکوین ارتقا پیدا میکنه در آینده نزدیک لازم نیست برای خرید بلیت اتوبوس مترو پرداخت حق اشتراک یک مجله سیاسی یا پادکست هویت واقعی خودمون رو فاش کنیم شبکه لایتنینگ باعث خصوصی تر شدن بیتکوین کوین میشه مصرف کننده ها هر روز بیشتر و بیشتر حریم خصوصی مالیشون رو از دست میدن شبکه لایتنینگ ممکنه راه حلی برای این مشکل باشه لایتنینگ شبکه پرداختیه که بر روی شبکه بیت کوین سوار شده سیستم پرداخت رایج توی دنیا مشکلات گوناگونی در حوزه ی حریم خصوصی داره چون هر کدوم از واسطه های مالی بلقوه حفره‌های امنیتی این سیستم هستن بیت کوین از این نظر متفاوت عمل میکنه چون واسطه ای وجود نداره، پس در اصل میشه این نقطه ضعف رو حذف کرد. اما جزئیات کلیدی تراکنش های بیت کوین در بلاکچین چین اون بایگانی میشد و هرکس می تونه اوها رو ببینه. محققان در حال کشف روشهایی هستند که در اونها بتونیم جزئیاتی از تراکنش رو از دید عموم حذف یا پنهان و در این حال بتونیم از بیتکوین برای پرداخت استفاده کنیم. فناوری لایتنینگ این قابلیت رو فراهم میکنه. شبکه لایتنینگ جزئیات هر تراکنش رو به صورت مستقیم روی بلاکچین بایگانی نمیکنه. هدف لایتنینگ بالا بردن سرعت و حجم تراکنش های شبکه بیتکوینه. حفظ شدن هرچه بیشتر حریم خصوصی، در واقع یکی از اثرات جانبی این هدفه. دقت کنین که مطالب مطرح شده توی این بخش شما رو به اشتباه نندازه. تراکنش‌های شبکه لایتنینگ در حال حاضر به هیچ وجه کاملاً خصوصی و ناشناس نیستند. اگرچه هدف توسعه دهندگان اینه که در آینده این قابلیت‌ها برای تراکنش‌های این شبکه فراهم شند. این پروژه خیلی شبیه به بیت بیتکوینه چون برای استفاده از اون نیازی به کسب اجازه از جایی یا شخصی نیست و برای همگان صرف نظر از مکان، سن، درآمد، جنسیت یا تابعیت در دسترس و از همه مهمتر در مفصار متن باز یا اوپن سورسه. استفاده از بیت کوین توی شبکه می میتونه از پدید اومدن ویران شهرهای آینده که در اون حریم خصوصی کالای گرانبهاییه و فقط اشخاص ثروتمند توان خریدش رو دارن جلوگیری کنه. حتی توی جوامع بدون پول نقد احتمالاً به زودی این امکان فراهم میشه که بشه با استفاده از یک اپلیکیشن روی تلفن همراه یک کتاب با موضوع سیاسی یا بلیط وسایل حمل و نقل عمومی برای حضور در یک تظاهرات رو به صورت آنلاین و ناشناس خریداری کرد. دستگاه های فروش بلیت مترو یا شرکت آمازون نخواهند تونست اطلاعاتی از خریداران محصولاتشون به دست بیارن یا نخواهند تونست داده ها و اطلاعات اونها رو با حکومت ها به اشتراک بذارن. با همه این تفاصیر شبکه لایتنینگ نوشداروی حریم خصوصی نیست. ناشناس بودن اطلاعات پرداخت در مسیر رسیدن به حریم خصوصی تمام و کمال، فقط قد یک قدم رو به جلوه. شکافهایی مثل راه های پنهان برای دسترسی به تلفن‌های همراه، ردیابی موقعیت مکانی و دوربین‌های مداربسته هم باید از بین برند. نسیم طالب نویسنده کتاب قوی سیاه میگه بیت کوین بیم نامه‌ای برای ویران شهر آینده است. با ادامه روندهای جهانی نظارت همه جانبه بر شهروندا و از بین رفتن پول نقد این آینده محتملتر به نظر میرسه. تکنولوژی همیشه منجر به ارتقاء آزادی افراد نمیشه، اتفاقا برعکس، هوش مصنوعی و تحلیل و بررسی داده های کلان به شکلی نظاممند باعث سلب آزادی های فردی میشن، مخصوصاً در جایی مثل چین. یوال نو حراری تاریخشناس و نویسنده ی کتاب انسان خردمند هشدار داده که فناوری اطلاعات در دنیای امروز باعث تقویت استبداد میشه. تکنولوژی در صورتی میتونه برای آزادی مفید باشه که به نفع آزادی طراحی و به خدمت گرفته شه. بیت کوین میتونه یه ابزار مهم در مبارزه جهانی برای حقوق بشر باشه. مخصوصاً وقتی به فناوری‌های جدیدی مثل شبکه لایتنینگ مجهز شد آینده محتمل سال 2039 برداشته اول در 20 سال گذشته جنگ و درگیری در جهان افسایش چشمگیری داشته کشورهای جهان تلاش میکنن موقعیت تثبیت شده دلار آمریکا و یوان چین رو از بین ببرند بعضی اوقات این آشفتگی های اقتصادی منجر به درگیری های خشونت میشه کشورهای ثروتمند از انحطاط سیاسی و رکود اقتصادی رنج میبرند و کشورهای فقیر به خاطر بحرانهای اقتصادی پشت سرهم و تمرکز قدرت و ثروت در دستان حکومت مرکزی و های بزرگ روی مرز ورشکستگی مطلق هستند. های فناوری عظیم مثل علی و تنسنت و فیسبوک و گوگل و آمازون کنترل بازار جهانی رو در دست دارن و بعد از تحمل چندین دوره فشارهای حکومتی طرح دعوا در دادگاه به خاطر قوانین ضد انحصار و توافقهای پیاپی بالاخره پذیرفتن که برای حفظ بازار اطلاعات کاربرانشون رو با ها به اشتراک بگذارن شرکتها اطلاعات جامعه کاربرانشون رو در سرتاسر سر جهان با ها به اشتراک میگذارند. اینکه مردم چه چیزی خریدن به چه چیزی گوش میدن چه می نویسن و کجا هستند شرکت ها پیرو حکومت ها شدن و حریم خصوصی وجود نداره این رویه باعث میشه حکومت ها کنترل بی سابقه ای بر شهروندانشون داشته باشن فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر میشه چون اثر کانتیلان هرچه بیشتر اثر میکنه و کسایی که با حکومت ارتباط نزدیک دارن میتونن به سروت های نامتناسبی نسبت به بقیه گروه های جامعه دست پیدا کنند. نظارت مستمر دیجیتال در حالی به یک هنجار تبدیل شده که دیگه امکان نقد حکومت های خودکامه وجود نداره. کنترل پول توسط حکومت ها و شرکت بزرگ به اونها قدرت میده تا جلوی ابراز عقیده مخالفان رو بگیرن و اونها رو سانسور کنن. چون دیگه نمیتونن پولی بابت کارشون دریافت کنن یا کسی نمیتونه از اونها پشتیبانی مالی کنه. تنوع عقاید جرم به شمار میره. دولتهای پلیسی در سرتاسر سر دنیا از اینترنت اشیاء داده های, های پزشکی ردگیری تلفن‌های همراه سابقه های, های بانکی و سابقه جستجوهای اینترنتی برای پیدا کردن و مجازات مخالفان استفاده می مخالفت با حکومت ناممکنه چون پول نقد منسوخ شده و همه خریدها از جمله خرید بلیت مترو و روزنامه و ماسک هایی که باعث پنهان شدن هویت افراد میشه به صورت دیجیتالی انجام میشه و زیر نظر دولت هاست. حکومت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی از همیشه قدرتمندترن. سال 2039 برداشت دوم اقتصاد پویای جهانی در حال رشد و شکوفاییه افراد زیادی در دنیا پولهاشون را پسانداز میکنن ثروت میاندوزند قدرت خرید مسکن دارن و میتونند کسب و کار جدید راه بندازن کارآفرینان از کشورهایی که قبلا به اونها کشورهای جهان سوم میگفتند پیشروان نوآوری در اقتصاد جهانی هستن تغییر تابعیت از همیشه آسمومتر چون همه قادرند به راحتی محل کار و زندگی و به طبع اون جایی که مالیات میدن را انتخاب کنند. بنابراین دولتها برای کسب رضایت شهروندانشون با هم در رقابتن. مالیات بر درآمد کاهش پیدا کرده ولی در عین حال کیفیت زیرساختها، خدمات و مدرسه ها به خاطر این رقابت جهانی افزایش پیدا خواهد کرد. بنگاه اقتصادی کوچیک، کالاها و خدمات بیشماری فراهم می و باعث نوع آوری هایی که کسی فکرش رو هم نمیکرده. بسیاری از شرکت های چند ملیتی که بر بازار سلطه داشتن حالا با تعداد زیادی از فعالان اقتصادی کچیکتری که در گوشه گوشه دنیا فعالیت میکنند، جایگزین شدند هر کس میتونه هر چیزی رو که میخواد بخره و پول اون رو بدون نیاز به کسب اجازه از احدی و به صورت ناشناس پرداخت کنه. بیشتر حکومت‌های استبدادی ضعیف یا سرنگون شدن چون دیگه شهروندانشون یاد گرفتن که چطور قوانین مالی سختگیرانه رو دور بزنن و ثروتشون رو به جای اینکه به جیب برگزیدگان جامعه بریزن برای خودشون حفظ کنن. دولتها به جای کنترل شهروندان مجبورند با هم رقابت کنند و افراد از همیشه آزادترند. دنیایی که بیشتر بر پایه بیت کوین باشه به چه صورت خواهد بود؟ پیش آینده کار بسیار پرریسکیه، برداشت های بالا دو چشمانداز مختلف از مسیر رایج دنیای امروز ما هستند. هیچ کدوم از اونها به احتمال زیاد به وقوع نخواهند پیوست اما تک تک افراد در کنترل مسیری که جامعهشون انتخاب میکنه مسئولن. سیستم مالی در میانه یک دوراهی قرار گرفته. بیتکوین قابلیت جدا کردن پول و حکومت از همدیگر رو داره. سوال مهم اینه. استفاده جهانی از بیتکوین چه اثری بر جامعه میگذاره؟ تجارت بدون مرز ظهور خواهد کرد. از قرن بیستم به بعد اقتصاد دنیا اغلب تحت کنترل دولت ملی بوده. گذار به پول دیجیتالی، یعنی پول فیات که به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار میگیره، مثلا موجودی حساب شما در نام افزار موبایل بانک، این اجازه رو به دولت داد تا برای انجام طرهاشون پول چاپ کنن، و اقتصاد رو به نحو جدیدی کنترل کنند با پیشرفت عصر دیجیتال اقتصاد کشورها دیگه نمیتونست به مرزها محدود شه اوایل قرن 21 میلادی این مسئله خیلی واضح بود چون مشتریان محصولاتی رو می خریدن که در اون سوی دنیا تولید شده بود شرکتها از کشورهای فیلیپین و نیجریه نیروی دورکار یا برنامه نویس یا دستیار یا حتی رادیولوژیست استخدام میکردند شرک های تجاری ممکن بود هزاران کیلومتر از همدیگه فاصله داشته باشند ولی ارتباطات بین اونها دیجیتال فوری و بیوقفه بود با این وجود انتقال پول بینالمللی همچنان کند و گرون انجام میشد پرداخت برای خریدن کالاهای آنلاین همچنان به کانالهای سنتی وابسته بود و تصویه بین نهادهای مالی دنیا که از دلار آمریکا استفاده میکنند همچنان روزها به طول می انجامید سیستم مالی با دنیایی که هر روز بیشتر و بیشتر به هم ارتباط پیدا می کرد، سازگار، نبوده و نیست. ظهور بیت کوین جرقه ایه که قادر موج بعدی تحول نظام مالی دنیا رو به وجود بیاره. کالاهایی که ذاتا دیجیتال هستند مثل بازی های ویدیویی و محتوای رسانه های اجتماعی، مثل محتوایی که توی شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و تلگرام تولید میشه، سهم بیشتری از اقتصاد جهانی رو به خودشون اختصاص خواهند داد. بیت کوین بیشتر به عنوان روش پرداخت در تراکنش های مللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چون روش سنتی همچنان کند و پرهزینه است امکان جابجایی مقادیر خرد در بیت کوین سریع و افسایش کاربران اون در نهایت فروشندگان رو مجاب میکنه تا کالا و خدماتشون رو بر اساس بیت کوین گذاری کنن. در حال حاضر جوامعی که به این صورت خرید و فروش می‌کنن کوچک هستن، مثل اونهایی که اوایل دهه 90 میلادی در اتاقهای چت AOL با هم گفتگو می‌کردن. اما هرچه پرشمار پرشمارتر بشن، بیشتر می‌تونن کنترل اقتصاد رو از دست حکومتها بگیرن. هرچی ثروت بیشتری از مردم سرتاسر سر دنیا تبدیل به این پول بینان بشه که مردم مالک واقعی اون هستن جابجایی پول راحت و از بند سیستم های اقتصادی ملی رها میشه. دولت ها با هزینه واقعی جنگ روبرو میشن. وقتی همه از بیت کوین استفاده کنند اختیار دولت‌ها برای تأمین حزینه های جنگ صرفاً با چاپ پول خیلی محدودتر خواهد شد و تأمین مالی جنگ‌ها دیگه به آسونی یک سال گذشته نخواهد بود اگر جنگی هم رخ بده کوتاهتر و محدودتر خواهد بود های طولانی مثل مداخله نظامی روسیه در سوریه و اوکراین یا اشغال عراق و افغانستان توسط ایالات متحده ممکنه دیگه اصلا اتفاق نیفته چون تأمین هزینه اونها بسیار دشوار خواهد بود. احتمال وقوع جنگ بین کشورها حتی کمترم خواهد بود چون دولت ها انگیزه بالایی برای حل اختلافاتشون از طریق روش های دارند تر دارن. برای حکومت ها گران تمام میشه. حکومتهای اقتدارگرا به سختی میتونن در محیطی جهانی که کنترلی بر اون ندارن رقابت کنن. اگه کنترل جابجایی ثروت اشخاص در اختیار خودشون باشه، وقتی افراد مولد اون جامعه ببینن شرایط زندگی توی کشور مطبوعشون مناسب نیست، به راحتی میتونن ثروتشون رو به کشوری منتقل کنن که شرایط دلخواه اونها رو فراهم میکنه. برای نگه داشتن این افراد در داخل کشور دولتها یا باید کنترل مرزها را افزایش بدن یا برای این افراد در سیستم حکمرانی کشور جایگاهی قائلشن. حکومت‌های دیکتاتوری به این سادگی از بین نمیرن. اونا دو گزینه خواهند داشت. یا باید با خروج مقادیر زیادی از سرمایه‌های کشور بروشن یا به مردم آزادی بیشتری بدن. آثار آزادی آزادی‌خواهانه بسیاری از ادبیات و فیلم به کمک شبکه‌های اطلاعاتی راهشون رو به خونه‌های مردمی که تحت سلطه حکومت‌های ستمگر مثل اریتره و کره شمالی هستند باز می‌کنن. استفاده از پولی که مثل داده‌های دیجیتالی منتقل میشه و میشه با امنیت کامل از اون نگهداری کرد، باعث گسترش این آثار در جهان خواهد شد. قیمت دارایی ها به درستی تعیین خواهد شد بیت کوین صرف نظر از مقام، نژاد و موقعیت مکانی به هر فردی این امکان رو میده که سرمایهش رو در اون ذخیره کنه در واکنش به تورم بیشتر مردم امروز بخشی از ثروتشون رو در ملک، سهام و فلزات گرانبها گذاری می‌کنند ولی بازار این دارایی ها متمرکز و دسترسی به اونها سخت از بیت کوینه وقتی مردم دنیا ثروتشون رو در بیت کوین ذخیره کنن حباب های این بازارها هم دیگه شایع نخواهد بود مثلا چون واحدهای مسکونی انبوه کمتری توسط خارجیان خریداری خواهد شد پس موارد حباب قیمت مسکن ناشی از تورم هم در آینده کمتر پیش میاد وقتی بیت کوین یک جایگزین ایدئال برای گذاری باشه دیگه خرید دارایی‌های باثبات در یک کشور خارجی برای سرمایه‌گذارا جذاب نخواهد بود. همه میتونن یک واحد مسکونی در شهر خودشون بخرن چون قیمت‌ها رشد غیرعادی نخواهند داشت. کشور خود ما همیشه با این مشکل روبرو بوده. افراد برای حفظ ارزش داراییشون ملک و آپارتمان میخرند. این مسئله در دوره‌هایی که اقتصاد درگیر تورم بالاست به شدت خودش رو نشون میده. در طول سالهای 97 تا 99 شمسی قیمت مسکن توی تهران 300 درصد رشد داشته. ظهور سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز. وقتی کشورها قادر به تصویه معاملاتشون با بیت کوین به عنوان یک پول ذخیره جهانی به جای پولهای منطقه‌ای دلار آمریکا و یورو و یوان چین باشند سلطه آمریکا و اروپا و چین از بین میره نیروهای کار آزادند به هر نقطه از جهان نقل مکان کنند و چون شرکت‌ها برای به خدمت گرفتن اونها در رقابت هستند سهم بیشتری از چیزی که تولید میکنند نصیبشون میشه های آمریکا و اروپا و چین نفوذ ظالمانه خودشون از دست میدن چون هر فردی میتونه بانک خودش باشه و این موضوع به افراد اجازه میده داراییهاشون رو رو پسنداز کنن. ثروت تو کشورهایی که نیروی کار صادر میکنن انباشته و کسب و کارهای داخلی اونها شکوفا میشه و در نتیجه خدمات و زیستاختهای اونها توسعه پیدا میکنه. قدرت بانکهای بزرگ کمتر میشه بانک که امروزه به خاطر ارتباطات ویژه با حکومت و کنترلی که بر پول مردم دارن خیلی بزرگ شدن ورشکسته شکسته یا خیلی کوچیک میشن مفهوم شکست ناپذیری بانک از بین میره و بانک و شرکت بزرگ نمیتونن انتظار داشته باشند تحت هر شرایطی از کمک‌های مالی دولت برخوردار بشن مثل اون چیزی که به بحران مالی سال 2008 معروفه بانک و شرکت بزرگ وقتی این مزیت‌ها را از دست بدن مجبور میشند به جای چاپلوسی و انتظار صدقه از دولت روی خدمات رسانی به مشتریانشون تمرکز کنند. شرکت‌ها و بانک های قادر خواهند بود به دلیل ذات بدون مرز بودن بیت کوین به مشتریان جهانی خدمات بدن و جای بانک های قولپیکر سنتی رو بگیرند. سقوط برادر بزرگ و سرمایه داری نظارتی سرمایه داری نظارتی یعنی شرکت های بزرگ با داده های شخصی افراد مثل یک کالا رفتار می کنند. اونها این اطلاعات رو برای مقاصد تجاری و کسب سود و از راه تحت نظر گرفتن افراد در اینترنت به دست می آرن. امروز شرکت‌های بزرگ برای سودجویی و دولت‌ها برای نظارت بر شهروندان از اطلاعات پرداختهای الکترونیکی سو استفاده می می‌کنند. تدوین قوانین حریم خصوصی در زمینه ی حفظ داده‌های مهم و خصوصی افراد نسبت به سرعت رشد اینترنت به عنوان تنها بازار آزاد جهانی کندتر بوده. بنابراین اطلاعات خصوصی افراد همواره بدون اطلاع و اجازه صاحبان اونها و به شکل‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل و بهرهبرداری قرار میگیره. اما اغلب پرداخت‌های خورد روزانه افراد با ظهور و بکارگیری کارگیری پرداخت‌های مبتنی بر شبکه ی لایتنینگ بیت کوین به صورت ناشناس انجام خواهد شد. وقتی از طریق اینترنت خرید یا حق اشتراک یه مجله سیاسی رو پرداخت می‌کنیم، یا به یه نهاد مردمی پولی هدیه میدیم یا هزینه درمان یه بیماری رو می‌پردازیم، هیچ کس به جز خود ما از اطلاعات دقیق اون تراکنش‌ها اطلاع پیدا نمی‌کنه. هیچ گونه واسطه‌ای برای پردازش پرداخت‌های ما وجود نداره که بتونه اطلاعات پرداخت رو فاش کنه. چون این تراکنش‌ها به صورت فرد به فرد، فروشنده فقط اطلاعات پرداخت رو میبینه، نه بیشتر. وقتی هیچ گونه اطلاعات شناسایی در میان نباشه، کار ردیابی و پیشبینی رفتارهای خرید مصرف کننده ها برای سیستمای نظارت کننده خیلی سخت میشه. شروع دستیابی به استقلال فردی کوین پدیده ایه که تأثیر بلغورش شبیه به اثر دموکراسی و اینترنت در جهانه. دموکراسی باعث از بین رفتن اقتدارگرایی و تمرکز در قدرت سیاسی شد و اینترنت کنترل دسترسی به دانش رو از دستان شرکت‌های بزرگ گرفت. به کمک دموکراسی شهروندان قدرت حکومت و دیکتاتورها رو محدود میکنن و با استفاده از اینترنت یه شهروند معمولی میتونه به دانش و اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشه و میتونه با صدای بلندتری عقاید خودش رو بیان کنه. بیت کوین هم انحصار پول رو که در اختیار شرکت ها و دولت هاست و از اون لذت میبرن از بین میبره. یکصد سال بعد افراد به شرایط دنیا در سال 2019 نگاهی میندازن و می‌بینند تنها چند نهاد و سازمان با امتیازهای خاص کنترل اقتصاد را در دست دارند. این موضوع همونقدر برای اونها قدیمی و منسوخ به نظر میاد که حکومتهای پادشاهی و فئودالی برای انسان امروز. این سیر تکاملی برای تبدیل شدن کوین به عرض رایج دنیا در سه مرحله اتفاق میافته. مرحله اول ذخیره و حفظ ارزش در قدم اول بیت کوین برای ذخیره و حفظ ارزش دارایی ها به کار گرفته خواهد شد این مرحله ای که مردم دنیا از پساندازهاشون در مقابل تورم ناشی از سیاست های اقتصادی دولت ها محافظت میکنند این موضوع به کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه که ابر ابرتورم هستند اختصاص نداره بلکه حتی برای کشورهایی مثل ایالات متحده و اروپا هم صادقه چون بیتکوین در بازه زمانی طولانی مدت عملکرد بهتری از پول ملی این کشورها داره در انتهای مرحله ذخیره ارزش صندوقهای بازنشستگی و موسسات مالی برجسته دنیا بیتکوین رو به سبد سرمایهگذاری اضافه میکنند و بعد از اونه که دولتها اقدام به اضافه کردن بیتکوین به ذخایر خودشون میکنند پذیرش عمومی بیت کوین در حالی که مردم به مزایای اون پی برند رشدی کند و طبیعی داره. مرحله دوم وسیله پرداخت. وقتی فروشنده های کالا و خدمات به این نتیجه برسن که از بین همه پولا فقط بیت کوین قابلیت ذخیره و حفظ ارزش داراییشون رو داره، تصمیم میگیرند در ازای فروش کالا و خدمات از مشتریها بیت کوین دریافت کنند. شبیه به فروشنده های بازار سیاه ونزوئلایی که از خریداران اسکناس دلار طلب میکنند و بولیوار که پول ملیه رو قبول ندارن. هرچی تعداد فروشنده ها، کارآفرینان، کارمندان و کارگرانی که بیت کوین رو به پول های دیگه ترجیح می دن بیشتر شه تقاضا برای بیت کوین بیشتر میشه. همونطور که، بعد از توافق برتون وودز تقاضا برای دلار سر به فلک کشید این تحول ابتدا نه در اقتصادهای پیشرفته مثل ایالات متحده بلکه از کشورهای شروع میشه که اقتصادی ورشکسته و تورمهای بسیار بالا و فسادهای رام نشدنی دارند این کشورها تحت سلطه حکومتهای ظالمی هستند که در اونها ابزارهای سنتی حفظ ارزش مثل دلار آمریکا و تلا کاربردشون رو از دست دادن چون به راحتی میشه اونها رو مصادره و توقیف کرد مردم توی این کشورها از بیتکوین استفاده میکنن تا کسی نتونه ثروتشون رو غصب کنه و اگه مجبورشن از اونجا فرار میکنن توی مرحله پیشرفت زیرساختهای پروتکل بیت کوین ایجاد نرم هایی که به درستی طراحی شده باشن و هایی که تصویر سریع رو ممکن کنن در اولویت اول قرار میگیرند. کار برای بیت کوین میتونن هم در زمان کم و هم به صورت خصوصی تراکنش مالیشون رو انجام بدن و این قابلیت ها باعث میشه شرکت های بزرگ و دولت ها مشکل تر بتونن مردم رو تحت نظر قرار بدن. مرحله سوم، واحد محاسبه، قیمت هر چی تعداد افرادی که بیت کوین دارند و به جای پول رایج کشورشون بیت کوین قبول میکنن بیشتر شه کم کم کالا و خدمات نه بر پایه دلار یا پول رایج اون منطقه بلکه کاملا بر پایه بیت کوین محاسبه میشه در این مرحله و در کشورهایی که ارزش پولشون به سرعت در حال کاهشه فرصتی پیش میاد که میشه با تبدیل کردن وام به بیت کوین به سود بالایی دست پیدا کرد این شروع فرایند استفاده همگانی از بیت کوینه که در اون دلار آمریکا و یوان چین موقعیت ممتاز خودشون خودشونو از دست میدن و بیت کوین تبدیل به تنها پول رایج دنیا برای تصویه حسابهای مالی میشه این اتفاق باعث ایجاد ابرتورم در بیشتر پولهای دنیا میشه چون بانک ها برای جلوگیری از فرصتی که بالاتر گفته شد مجبورن وام گرفتن رو برای مردم گرون کنن. استفاده روزافزون مردم از بیت کوین به عنوان ابزاری برای حفظ و زخیره ارزش باعث میشه بقیه پولهای دنیا بخش قابل توجهی از ارزششون رو از دست بدن. هنوز در ابتدای راه هستیم اغلب فناوری هایی که در دنیا تغییر ایجاد کردند در ابتدای کار مورد اقبال عمومی قرار نگرفتند الکتریسیته رو در نظر بگیریم که گفته میشد خیلی خطرناکه تلفن که کسی رغبت به خریدنش نشون نمیداد خودرو که سنگفرش خیابونها برای عبور و مرورش مناسب نبود هواپیما که ایمنی نداشت، مایکروویو که از قرار معلوم همه مواد مغذی غذا رو از بین می‌برد، تلفن همراه که ظاهراً منجر به سرطان می‌شد یا اینترنت که عاقبتی جز شکست در انتظارش نبود. پاول کروگمن نویس مجله نیویورک تایمز در سال 1998 گفته بود تا سال 2005 به همه ثابت خواهد شد که تأثیر اینترنت روی اقتصاد بیشتر از دستگاه فکس نخواهد بود. هر فناوری بنیادی از یخچال گرفته تا کارت اعتباری باید روندی رو برای پذیرفته شدن طی کنه. در اوایل کار همیشه افراد زیادی به اون مشکوک هستن ولی در نهایت روند استفاده از اون شکل نمایی شبیه به حرف انگلیسی S به خود میگیره و اون فناوری شیوع پیدا میکنه. بیت کوین یک تکنولوژی با روند نماییه که هنوز در سطوح پایینی از نمودار اس شکل خودش قرار داره بیت کوین از نظر کاربرد ظرفیت آگاهی عمومی و جذابیت تجاری با چیزی که باید باشه فاصله بسیاری داره تعداد شرکت هایی که محصولی بر پایه بیت کوین میسازن تعداد دانش آموزانی که بر روی اون تمرکز کردن تعداد آموزگارانی که مطالعه اون رو به دانش آموزان تکلیف میکنن، تعداد فروشنده هایی که بیتکوین کوین دریافت میکنن، تعداد نهادهای بشردوستانه که به توسعه بیتکوین کوین کمک میکنن و تعداد رهبرانی که توانایی بیتکوین رو برای به دست آوردن حریم خصوصی مالی به خدمت بگیرن، کمن. در این حوزه نیازمند فعالیت و تفکر انتقادی بیشتری هستیم. کمتر از یک درصد مردم دنیا بیت کوین دارند اگه منابع زمانی و مالی کافی برای توسعه کیف پولهای کاربر پسند سرافیها و منابع آموزشی هزینه بیت کوین، توانایی بالقوه برای ایجاد تغییر در زندگی میلیاردها نفر در سرتاسر سر دنیا رو داره بیت کوین میتونه به همه کمک کنه تا آزادی مالی بیشتری به دست بیارن اما احتمالاً اول به کسانی کمک میکنه که احتیاج بیشتری به اون دارن مردم نیجریه ترکیه فیلیپین ونزوئلا ایران چین روسیه یا فلسطین به اندازه شهروندان کشورهای پیشرفته غربی از آزادیهای مدنی و حقوق بشر برخوردار نیستند تاب سیستم مالی کشورشون اعتماد ندارند برای اونها بیت کوین راهی برای فرار از سیستم اقتصادی و سیاسی ناکارآمد همکاری نکردن و خارج شدن از یک سیستم فاسد راههای جدید اعتراض هستند برای اعمال تغییر لازم نیست یک نفر با هزاران فرد دیگری که مثل اون فکر میکنن هماهنگ کنه تا برای اعتراض در یک روزه به خصوص به خیابونها بیان. این افراد میتونن به راحتی ارسال ایمیل دارایی خودشون رو به هر کجا که بخوان منتقل کنن. اعتراضها میتونه نفر به نفر باشه. مقبولیت و پذیرش بیتکوین در ابتدا قطره و بعد مثل جریان رودخانه و در نهایت به مانند سیل خواهد بود آینده در دستان شماست بیت کوین اختراع حوشمندانه یه که راه های جایگزین جدیدی برای مشکلات بیشمار سیستم های فعلی مالی و اقتصادی فراهم میکنه نابرابری ها شرکت های چندملیتی طلب و حکومت‌های اقتدارگرا همه نتیجه کنترل دولت‌ها بر پوله. وقتی مردم دنیا بیتکوین کوین رو بشناسن و یاد بگیرن که چطور میتونن برای رسیدن به استقلال از اون استفاده کنن، قدرت در سرتا سر دنیا به شکل قابل توجهی غیر متمرکز میشه. حکومت‌های اقتدارگرا مجبورن برای کرامت، ارزش‌ها و استعدادهای انسانی ارزش قائلشن. به جای چند شرکت بزرگ چند ملیتی شرکت های زیادی به وجود میان که برای خدمات رسانی به مشتریانشون تلاش میکنن اگرچه همچنان نتایج تلاش های افراد نابرابره ولی بیت کوین شرایطی رو برای انسانها فراهم میکنه که بتونن داراییشون رو به راحتی ذخیره کنن چه چیزی میتونه از این مفهوم عادلانه تر باشه؟ برای مشارکت در انقلاب مالی بعدی دنیا داشتن تنها یه تلفن هوشمنده نچندان گرون و دسترسی به اینترنت کفایت میکنه برای سهیم شدن در این آینده به هیچ بانک و مسئول دولتی و مجوزی نیاز نیست هرکس با پس گرفتن اختیار ثروتش از چنگ نهادها و اشخاصی که بر سر کار هستن میتونه برای سرنوشت خودش آزادانه تصمیم بگیره. بیت کوین آزادی بشر رو از راههایی امکان پذیر میکنه که در اوایل قرن 21 میلادی کسی فکرش رو هم نمیکرد. این کتاب رو به دیگران بدید و به گسترش این ایده کمک کنید